و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگهدار من پیاده می شود. به به به سلام علیکم سلام علیکم حال شما چطوره ایسکا 5 شنبیای عزیز که از راه دور و نزدیک با خانواده بی خانواده به همراه فامیل دوستان آشنایان باقی وابستگان سببی نسبی یا حتی بی همراهی این عزیزان دارن ایسکا 5 شنبر از رادیو فردا به صورت زنده یا حالا بعدن از طرق مختلف از تلگرام و اپلیکیشن و وبسایت رادیو فردا و غیره دارن به صورت مرده گوش میدن ما از شهر پراگ از استودیوی رادیو فردا و از ایسکای پنجشنبه با شما هستیم و همطور که قبلا هم گفتیم هیچ جا نمیریم همینجا نشستیم بنده فرشید منافی به همراه سعید هابیل و شهرام جلال و شراگیم با شما هستیم تا ساعت هفت آقا برو بریم امروز و عشق بی خیال فردا برو خب به سلامتی دوستان عزیز خانم ها آقایون دختر خانم ها آقا پسر ها امروز صبح معظمله حکم ریاست جمهوری شیخ حسن روحانی رو تنفیز کرد و دیگه خیالم راحت شد یه وقت معظمله تنفیز نکرده سالهای پیش رو, رو سر نمی کنن. یعنی این تنفیز کردن ایشون خیلی بامزه است یعنی معلومیست از کجا در اومده این مرسن و دیگه حالا یه نفر که رعی آورده چرا باید در نهایت در یک مراسم عبادی سیاسی دست به سینه جلویشون وایسه تایشون تا مثلا حکمش بده دستش کلا اینجوری که تو تصاویر مشاهده شد همه مقامات کشوری و لشکریه که تو این مراسم بودن از روحسای قوا گرفته تا خیلی از نماینده های مجلس اما از روحسای جمهور سابق نظام دو تاشون فقط حاضر بودن چون خب بنی سرد که خب علی بخاط بره اون طرفاتی که بزرگش گوششه هاشمی رفسنجانی که خب طبیعتا از اون دنیا نمیتونست بیاد تو این مراسم محمد خاتمی از این دنیا نمیتونست بیاد تو این مراسم دیگه میمونن خود معظم له و عسام محمود که خب عسام علارغم همه بدو بیراهایی که خودش و رفقاش بار نظام کردن و میکنن هنوز ممنول همه چی نشده میاد و تو اینجور مراسم همچنان شرکت میکنه در همین رابطه آدم ناسازگار کاربری به نام آدم ناسازگار توییت کرده بود شما برای نظام آرزوی سرنگونی کنی به مراسم تنفیز دعوت میشی ولی اگه منادی وحدت و آشتی ملی و اصلاحات از درون نظام باشی حق حضور نداری بامعزه است که اوساب مشکل جا داشت توی این مراسم تنفیز اول نشونده بودنش تو حلق آج رئیسی ولی بعد ظاهرن دیدن که خیلی اینا دیگه حلق تو حلقن اینه دیگه بعد بلندش کردن بردن نشوندنش کنار حسن آقا خمینی وقت نکنه حرفایی که تو این مراسم توسط شیخ حسن و معظم لحزده شدن هم خب خیلی به جای خاصی بر نخورد خیلی چیز خاصی نبود <تصفح> شیخ حسن فقط یه جایی تو حرفاش بغس کرد دیگه معظم لندگی دیگه کلی سفارش کرد حواست دولت جدید به باشه مثل همیشه. و دیگه ما از عمله البته سفارش هایی هم کرد در مورد مدارا با منتقدین و اینا که مثلا حسن سربخشیان توی تویتر درباره این قسمت از حرفاش تویت کرده بود رهبر خیلی شیک شده امروز میگه از نظرات مخالفین و انتقادها آشفته نشوید اما اگه ناچار شدین میتونین هفت سال حسشون کنید تویتر حسن سربخشیان بود که اشاره داره به حسر سران جنبش سبز که خب اونها منتقد حکومت بودن و همین آقای محظمله این همه وقت کردتشون تو حس رو بلکنم نیست یا مثلا در مورد مهمونا یه کاربری به نام هرمس عکس عباس جدیدی رو تو مراسم پست کرده بود و نوشته بود که سالها بعد کی باور میکنه که فوتوشاب نبوده حضورش تو مراسم خلاص این مراسم عجیب غریبم در بین خوابالودگی هزار برگزار شد و شنبه هم ضمناً توی مجلس مراسم رسمی تحلیف برگزار میشه تا شیخ به جون عزیزاش قسم بخوره دیگه رئیس جمهور گوگلی مگولی و خوبی خواهد بود در این چهار سال و در نهایت هم ما مهمترین دستاورد همه این مراسم ها برای تهرانی ها به خصوص اینه که دقت کنید ها شنبه به خاطر این مراسم تحلیف تهران تعطیله و همین باعث شده دوباره ملت سفر رو استاد کنن و حطور بنامه گزارش های رسیده دانش آموزان و دانشجویان خیلی اعتراض کردند که چرا این مراسم رو تابسون برگزار می کنید که ما تعطیلی ماخه. اینه که ما هم, هم اینجا از مسئولین میخوایم مراسم های تعطیلی دارشون رو لطفا بندااززم توثال تحصیلی تا دعای خیر جامعه آموزشی کشور اماز دانش آموز، دانشجو معلم استاد. نازم و باقی وابستگان با نظام پیشرفتی آموزشی هم دعاشون هم جوری پشت سرشون باشه همین الان هم گزارش شده دوستان عزیز خیلی از این عزیزان رفتن ددر یعنی از همین الان رفتن ددر رو کجا؟ کجا؟ مثلا کجا رامسر چی سوار شدن؟ تلکابین میگین نه؟ از آقا هم بپرسی؟ دلاتی نه، دلکوینه بولان چار شل شل شل زندگی همینه ویتامینه خبیتار هو اولینه ترین تو رم سر شل شل شل تو کل دادینه همه سینه تو داده استقبال و خرس نه دلکوینه رم سه تا دلاتی نه دلکوینه رم سه خوش بیزارم اون ای با نسیم به پارکی رو ای با ماشین نمرد بالا اما شل به اینه کل ای با بچه هوای داره این رامسر برین جنگل بده تلکابین دریا دوباره اصیر برید یاد یاد او بدی لدینه پلکابینه بولندتر شل شل شل, شل زندگی همینه ویتامینه قبیتر او اولینه پانترینه تو رامسر شل شل شل گوگلی درینه همه سنینه تو دردر استاب اول و اخر سر تلکابینه رامسر او dilatina hel tele cabin romance chak chak package chak chak package open open package open شماماله میدهم میشه به من حال اخه میرسم به شهر شربار میسازم کلی یاد گار اخی جاده چلووم س توول لای ولی رمسه واسه خودش گیزت هر بوسسه هرکییه هنوز ابوس سهفزن تو گوشش خیلی لوسی او جچک پی لینه بل کابینه بللت از چله چله زندگی همینه به یتامین قوی تر اولینتبانترین تو سرل قوی تر سر شلہ چلہ چلہ کیپلٹیری نہ همه سنی تو ڈاٹ سٹاپ اپ بعد و خسارت تلکاپین رامسا اوہ تڈی لاتی نے تلکاپین رامسا فرشید منافی مسائل رو کشش میده بگید کش نده آباری بله خیلی ممنونم مثلا معظم لح بودنشون مثلا یه مسائل بعضی وقت خودشون کش میان دیگه تقصیر منم نیست خیلی ممنونم از تماس شما سلام علیکم آقا سعید سلام علیکم سلام خوبی حالا چطور خوبی دورانه سلام به تو و سلام به همه رفقای اسکای پنچنبه خب بریم ببینیم که مثل همیشه اول برنامه با سعید یه گپی بزنیم ببینیم, ببینیم چیا داریم اونایی که همین اول برنامه میشنون حدوداً دستشون بیاد که چه, چه ها خواهیم داشت برنامه این هفته تولد داریم تولد عارف مورد... میشه تا... بله چند تا چند تا تولد بازیه؟ عارف مرتضی پاشایی لویز آرمسترانگ جری هالیوэл ویدنی هیوستون و فریدون آسرایی به به به به تولد همه اینا رو جشن میگیریم زمنان امروز با پراید همه جا میریم دیگه میدونین حالا اونایی که میدونن توی, سو... توی سوشاد میدیو فضای مجزی موضوع من... موضوعمون نه ولی سوالمون من راجب پرایده حالا سوالو رو میگم خدمتون به کنسرت های هفته آینده میپردازیم کنسرت نمایش و همایین شجریان و سهراب پورنازری فرزاد فرزین هامی، همای و سیامک عباسی بعد دیگه یک نماینده مجلسی آپرکات زده تو صورت معمون تو رو ببینن توی اینستا لایف هستیم بچه حزود میم بگم توی اینستاال لایو هستیم دوستان گفتن نشون سیدمشون سعیدم نشون بدم سعید و دیدیم اینجا سعید ما اینجا پایه نداریم ما آدم های بی پایه اساسی هستیم گفتم همیشه خود سخته اینو بخوایم همه رو نشون بدیم بچه هم دستشون بندمون و برله می دست. بعدم دستت بعد خالی شد بیا از اونور جفتن اه، اه، هیچی هیچ بچهایی که دوستانی که از رادیو گوش میکنن صدای ما رو خیلی <تصفيق> گرفتار اینستاگرام انستا، لایو و اینا هست. چی داشیم میگفتیم آها اه، آقای مشایی آقای بقایی و آقای احمدی نژاد این سنوگل عزیز به حال باز هم حواشی داشتن حرفایی زدن آقای بقایی که هفته پیش بهش حرف زدیم کلی فحش و فضاحت داده بود آقای مشایی هم همینطور طور همینجوری دارن رد میشهن روی آقای ایجی ای و کلا قوه دارن میزنن رد میشن روی همه میرن و توی چالش گویندگی این هفته هم همکارای افتخاری به تیلر سویفت میپردازن بله بله, بله. راستی؟ جان بگو چیزی میخواستی بگی؟ نه دیگه ما حرفی نداریم نمیگی؟ دیگه گفتیم دیگه تقریبا چیا داریم پراید داشتی تا حالا؟ پراید؟ من نه پراید نداشتم ولی همیشه یه دورانی نمیدونم که 20 سال پیش چقدر سال پیش بود؟ آرزوی داشتن پراید رو داشتم. اون پراید, یاد داشتن پراید داشتن یه زمانی تازه پراید داشتن اصلا با خودش کلی کلاس پراید از زمان میشه آه، آه. ولی نه نذاشتم دیگه. حالا چرا این سوالو ازت پرسیدم؟ چون این هفته ام. مدیر عامل سایپا گفته پراید خودروی مطلوب اقشار کم درآمد است. بره. بعد یکی از نمایندای مجلس هم در اعتراض بهشون گفته پراید یه تابوت کم داره که سایپا اونم هم همراه خودرو به مردم بفروشه حالا بله. دقیقا حرف مام همین همینه سوال ما هم همین از شما شما به ما بگید نظرتون در مورد خدروهای تولید داخل و علل خصوص پراید چیه؟ چون اونجوری که خب آقای نماینده میگه ملت باید اول اشدو بگن بعد برن تو پرایدشون بشینن. گفته مدیر سایپا هم که یعنی مرگ بیشتر الان دم گوشه اخشا کم درامده پراید زواد تو باقیه. البته البته هر ایرانی دل یه شکلی با پراید خاطره داره و دقیقا. جالب اینجاست که الان سال هاست هر چند وقت بار مسئولین اعلام میکنن که از سال فلان پراید پراید دیگه تولید نخواهد شد. اما سال فلان بارها اومده و رد شده و ما هنوز پراید رو در صحنه داریم داری. بله پراید رو داریم ضمن پراید به عنوان ماشینی که سالهاست خیلی از ایرانی‌ها روندنش شده اصلا یه فرهنگ تا اون اولا که اومده بود واسه خودش کلی لوکس بود یعنی شما پراید می‌خرید دیگه کی تو فامیل مثلا عروسی می‌کرد طبق داش پراید تو بدی ماشین عروسش کن تا رسیدیم به الان که دیگه انقدر کشته و زخمی داده که دیگه صدای آقای نماینده مجلس در اومده اینه که این هفته و امروز شما هم بیاید به کمک ما و برای این برنامه از پراید برامون بگید دیگه از خاطرات پرایدیتون، از نظرات پرایدیتون، نظرات کارشناسیتون، دیگه هر چیزی پرایدی دارید بریزید روی دائره تمام استفاده کنید میتونید نظراتتون رو از طریق راه های ارتباطی با ایستگاه پنج شنبه ایمیل ایستگاه 5 ات و تلفن های تماس 2420, 2211, 24, 133 و 163 صفحه تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام فرشید منافی و یا حتی اپلیکیشن آی او برنامه با ما در میون بذارید روی پراید شاید بیش از هر چیز دیگه من و هم سلام روی یاد مجموعه تلویزیونی بندازه بهسم خودرو تهران 11 که در دهه 80 اگر اشتباه نکنم پخش می که یک پرایدی بود که دست شخصیت های مختلف می چرخید اگه میشه تو این شربه این نزول گردم و چین نداشته باشهخره مررهتم که بایی یه یا یاافظرت کم میتونی بخرید نه راست میگی ماشین نیستش که اسبا بازیه بندم پول بالا ماشین ژگولی نمیدم این ماشین جمام که سال به دوازدم خرابه اخه شما که ماشین م را ندیدی راست میگی. اجازه هست از خدمات تا مرخص بریم دیگه یکی از اون قسمت ها هم که خیلی با بود مرحوم رضا جیان این ماشین رو به نوعی سرقت می‌کنه میبره روستاش هر کسی که اینو می‌بینه فکر می‌کنه خیلی پول دار شده یا ازش یه چیزی خرج می‌کنه یا اینکه میگه بس پسر منم مثلا به بس سر رو استفادهش بکنه اینها به هر حال در اون دوره نماد یک خودروی پولداری و لوکس بوده دیگه اینو که از قفس تنگ و جای گنده و ناشیه هتول همیشه پنچره راه نرفته در میره لاستیک چرخ اولی ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیم و ماشین مشتی ممدلی نه بغداره نه تندلی درست این ماشینم هم این امه خدا بیا مرز ما یعنی چی؟ هر جا میره نرفته بر میگرده بله ماشین مشتی ممدلی هم حالا به هر حال یه جورایی میشه گفتی که به بعضی از پرایدها یا اصلا به پراید میشه گفت یه چند تا کامنت بخونیم خیلیا چون زودتر دیروز سوال رو گذاشته بودیم روی فضای مجازی در تلگرام و اینستاگرام خیلیا کامنت دادم برامون تو تلگرام نیکی بانو گفته که الان دیگه خیلی از آدم‌ها هم مثل پراید شدن وقتی داشته باشیشون باید اشهدتو بخونین یکم بیاد تولید اینا رو متوقف و نسلشونو منقرض کنه خیلی نیکی بانو دلش فکر از آدم ها فکر کنم. محشید روی اینستاگرام برامو نوشته یادم یکی از آپشن های خاصگار خوب داشتن پراید بود. همین؟ همین. آره یادته؟ آره یه زمانی. من یادم نیست ولی خانوما یادشون. من لپتاپ من... طب... گفته فرشی جون یعنی الان فکر می‌کنی امروز که می‌خوای با پراید 4 ساعت برونی هنوز همون هم سفرهای سابقو داری البته فکر کنم خودت هم وحشت کردی که داری دنبال رفیق رفیق راه می‌گردی. خلاصه ما رو رفیق نیمه راه ندون چون که ما عادت به پرادو سواری نداریم و بس, بس. آکول کاربری به اسم آکول نوشته برامون خیلی کوله آره احتمالا کامنتش هم کوله نوشته پراید همون که از معنیش پیداست یه ماشین مغروره باید ازش ترسید مثل یه دختری که موهاشو کوتاه میکنه خیلی فلسفی آره باید. خیلی قرارانه غریب از آذربایجان غربی گفته والا این نماینده حرفش حق یه تابوت هم زحمت بکشن رو پراید بدن البته که خزینه‌ش رو هم بکشن رو قیمت پراید که یه هو سایپا ضرر نکنه اه اه خاک بر سرشون با این ماشین درست کردنشون واقعا باید خجالت بکشن سال به سال صنعت خود رو پیشرفت می‌کنه مال ما سال به سال دزدی‌هاشون بیشتر میشه آخه تا کی تا کجا ندا برامون نوشته در بی کیفیت بودن پراید شکی نیست ولی قسمت اعظم تصادفات به علت خطای انسانیست و از همه مهمتر اشکالات ترافیکی و کیفیت راه های ایران بله خب امروز اگر خواستید با ما در تماس باشید دوستان عزیز میتونید راجب پراید برامون حرف بزنید دیگه راجب پراید بگید که نظرتون خاطره ای دارید حرفی دارید از پراید برامون بگید ایسکا پنج اترادیو فردا.com دو صف چهارصد بیست و دو یازده بیست و چهار صد و سی و و میتونید بر ما همچنان کامنت بذارید و یا از طریق تلگرام و یا از طریق اپلیکیشن ایویس صداتون رو به ما برسونید یه کاری خونده امیروسعانه افتخاری کار جدیده کارش خوبه دیگه بیش با هم ایوار امیروسعانه افتخاری یادتونه دیگه افتخاری بله بیا بیا مجنون تر از که دمیران شوه بابوی سر زلف تارا شوه مجنون تر که دمیران شوه بابوی سر زلف تارا شوه یار دل آزار من گرمی بازار من یاره دل‌آزور من گلمیه باز دور من یاره دل‌آزور من گلمیه باز دور من ای یار ای یار تو چقدر سنوشی ای یار همسردند چی دیو؟ پسی من خوردیو؟ دل من بردیو؟ حال مرا را چی دیو؟ همسردن آب چی دیو؟ پسی من خوردیو؟ دل یارم یارم گرم من مستم بوده دستت وا خدا باد و خرد سر شکستم من مستم مست بوده دستت وا خدا و خرد سر شکستم دل دادم دل بردی دل به تو هستم یه کاری کردی که کار دادی دست دلم دادم دل بردی دل به تو بسیم یه کاری کردی که کار دادی دست دست دست ای یاری یاری چطوری قدرت کشی ای یاری یار. یاری یار یار. تو مرا میکشی حالام کام زدندم چی دیو؟ من خوردیو؟ دن من بردیو؟ حال دیدیو؟ هم زدندم چی دیو؟ من خوردیو؟ دن من بردیو؟ یارم یار آرف آرفکی کیا معروف به آرف خواننده خوش صدا و شناخته شده و قدیمی کشورمونه که مثل چند نفر دیگه از خاننده های مطرح پاپ قبل از انقلاب صدا و سبک منحصر به فرد خودشو داشته و داره صدای آرف روی موزیک های تعداد زیادی از فیلم های فارسی قبل از انقلاب حسابی برای نسل های گذشته خاطره ساخته و شاید خیلی از قدیمی ترها آرف رو همیشه با آهنگ سلطان قلب ها در فیلم سلطان قلب ها با بازی به موندنی زندیات فردین به یاد بیارن نوزدهم مرداد تولد این دوست داشتنی ایرانیه این میلاد مرداد ماهی رو به عارف و همه طرفدارانش تبریک میگیم و در هفتاد و شش سالگی براش سلامتی و بالندگی آرزو کنیم سراغ هانا کاویانی و ایستگاه بین الملل این مناظره تا نامزد آمریکا رو دیدی سلام فارسی خوبی بله خوش اومدی خير ممنوناً چرا جدی خستم خستهی <تصفح> خسته نباشی <تصفح> <تصفح> <تصفح> خسته نباشی <تصفح> <تصفح> خسته نباشی, <تصفح> خسته نباشی. <تصفح> خب هفته قبلم گفتم هفته هفته پیشم گفتم ما ولت نمی‌کنیم اول از همه هم همیشه تحریم هست و اینها بعد راجع به تحریم هر بزنیم چی بوده این داستانی که آقای ترامپ امضا کرده دیروز این همون است که توی مجلس نمایندگان بعدش تو سنا تایید شد راجب اون صحبت کردیم و حال نیازمند امضای رئیس جمهور آمریکا بود که امضا شد یه بسته تحریمی که از اولش با تحریم‌های ایران قارون گزارای آمریکایی شروع کردن این بسته تحریمی رو نوشتن بعد که پیشرفت اون وقت روسیه و کره شمالی هم با توجه به تحولاتی که درباره این دو کشورم ادامه پیدا می‌کرد کرد را هم اضافه کردن بخش ایرانش چند قسمت داره یک بخشش مربوط به اون است که گفته میشه حمایت ایران از تروریسم بحث, بحث حقوق بشر هست شهروندان آمریکایی زندانی در ایران و مسائل مختلفی رو شامل میشه اما اون چیزی که شده. آها اون چیزی که خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفته بخش سپاه این تحریم هاست با توجه به اینکه این اولین بار هست که سپاه به عنوان یک نهاد به صورت کلی تبدیل شده به یک سازمانی که مورد تحریم قرار گرفته و این راه رو باز میکنه برای مراحل بعدی که بتونه دولت آمریکا با سپاه برخورد بکنه مثلا اگر بخواد که در لیست گروه های حامی تروریزم مثلا سپاه رو قرار بده مضافه بر این که یک بحثی هست و اون اینه که سپاه تنها یک شاخه نظامی نداره شاخه نظامی اقتصادی خیلی فعالی داره در عرصه های مختلف اقتصاد ایران و و برای همین این نگرانی وجود داره که اونهایی که میخوان سرمایه گذاری در ایران بکنن و اینها حال با مشکل مواجه میشن به دلیل اینکه سپاه به صورت کلی چون قبلا خیلی از این شرکت های زیر مجموع سپاه افرادی که با مثلا رئیس این شرکت ها بودن اینا تحریم بودن تحریم‌های های مختلف آمریکا حتی تحریم های اروپا که اینا همه تحریم های غیر هسته ای هست تأکید تاکید بکنین به برنامه, برنامه تحریم هست تحریم تحریم‌های دیگه است. اما حالا فقط 100 تا شرکت زیر مجموعه نیستن الان کل سپاه رو داریم راجبش صحبت میکنیم و این بخش از تحریم ها کل سپاه تحریمه الان بله، با این تحریم بله، جدید که دیروز بله، امضا شده بله. خب و بعدش فقط ایران هم نبوده آره، بخشش گفتم. مال روسیه بوده آره. اون،, اون بخشش اتفاقاً ت... رسانه های مثلا غربی رسانه های انگلیسی زبان اگر دیشب نگاه میکردی کسی نمیگفت که آقای ترامپ تحریم های ایران یا کره شمالی رو تایید کرده همه میگفتن تحریم های روسیه رو تعیید کرده به خاطر اینکه اون بخش روسیهش چون که آقای ترامپ در دوران کارزار انتخاباتیش خیلی تاکید کرده بود که تمایل داره رابطه رو با روسیه بهبود ببخشه، ارتقا بده، وضعیت رو از تنش کم بکنه و اولش به نظر می که همچنان در این راستا داره حرکت میکنه، اما قانونگذارهای آمریکایی خصوصا قانونگذارهای دموکرات به خاطر اینکه این بسته این تحریمی رو نوشته بودن و استفاده کردن از اون فرصت توافق نظری که راجع به بحث ایران داشتن اومدن زیر مجموعه این تحریم تحریم روسیه رو هم اضافه کردن و به نوعی همراه کردن قانونگذاران جمهوری خواه رو که بیان و به این بسته تحریمی با اینکه روسیه رو هم شامل میشه رای بدن و موضوع اینجاست که روسیه به این دلیل تحریم میشه تحریم شد حال که اتهام این بهش واردی که دخالت کرده در انتخابات آمریکا و همچنین تحریم های پیشتری هم که وجود داشت درباره اوکراین و اون تنشی جوز. که در شرق اوکراین وجود داره حالا روسیه, روسیه هم واکنش نشون داده گفته که به نظر میاد که آقای ترامپ اون قدرتی که میتونست بهبود ببخشه شرایط روابط مسکو و واشنگتن رو نداره و روسیه مطمئنا کار خواهد کرد که اقتصاد خودش رو قوی بکنه بدون اینکه احتیاج داشته باشه به چیز دیگری در نتیجه اون تنش آمریکا و روسیه حالا وارد یک مرحله تازه تر و داغتری شده حالا راجبه آقای ترامپ و حالا این جدید هم امضا کردن ولی اتفاقات جدید غریبی تو این یه هفته دو هفته اخیر داره میفته توی کاخ سفید و آدم‌هایی دارن عوض میشن مثلا این نه. رئیس ارتباطات و کاخ سفید و ده روز همش سر کار بود میگن یازده روز <laughs> خیلی حالا خیلی خوب یه روزم 11 روز نه خب ببین به هر حال اون چیزی که وجود داره اینه که صحبت خیلی زیاد هست درباره هاشیه هایی که کاخ سفید از زمان روی کار آمدن آقای ترامپ داره و افرادی که به هر حال ساختار شکنی انجام شده خیلی از خود افراد قانونگذاران حزب جمهوری خواهم راضی نیستند از برخی به این روزهای کاخ سفید به دلیل اینکه میگن که این اون وقت تحت شعار قرار میده کلا ساختار سیاسی آمریکا رو، رهبری آمریکا رو در جامعه بین المللی همه اینار تحت قرار میده. یکی از این حاشیه‌ها از جمله همین داستان آنتونی اسکاراموچی بود که اسمش هم خیلی سخته چی بگو یه بار دیگه بگو انتونی اسکاراموچی اسکاراموچی اتفاقاً توی توییتر هم یه بحثی بود تویت‌ها کرده بودن که تا میایم اسم این عضو <ت Bam> <انتوجه> جدید یاد بگیریم مال کاخ سفید و این عوض میشه از لونس آره> میشه و بعد آقای ترامپ با توییت از لونس میکنه جدیدن آره آره اون ابتدا اصلا البته ببین داستان آقای اسکاراموچی یه ذره پیچیده است به دلیل اینکه واقعا ساخت واشکری به یک مرحله تازه ای رسیده بود در موردشون چون از ادبیاتی استفاده می کرد راجب همکارای خودش در داخل کاخ سفید و کسانی که با اومدنش مثل آقای پریبوس که تا اسکاراموچی منصوب شد در بخش ارتباطات پریبوس از کاخ سفید رفت درسته. و بعد از اینکه پریبوس رفت پریبوس آدمی است که به هر حال رئیس کنگره ملی جمهوری‌خواه بوده یه مدتی بعدش هم از نزدیکترین آدم‌ها با آقای ترامپ بوده از روزی که وارد کاخ سفید شده و حال پریبوس وقتی که میره آقای اسکارموچی راجبش یه صحبت هایی میکنه از الفاظی استفاده میکنه که الفاظ ناشایستی بوده و واقعا فضای رسانه ای امریکا میشه گفت که شوکه شده بود اون دلیل عزلش هم همین بوده یک بخشیش گفته شده بود که این بوده اما باید توجه داشت که آی ترامپ در حالی اسکارموچی رو برکنار کرد که همون روز جنرال کلی از وزارت امنیت داخلی رفت و شد رئیس دفتر آقای ترامپ و تا کمک بکنه به نوعی تا یه نزمی بده به این وضعیت آشفته ای که در کاخ سفید گهگاه به بیرون درز میکنه اه. وقتی که آقای کلومت گزارش هایی هست که میگه که آقای کلی تمایل به حضور کسی مثل کارموچی در کاخ سفید نداشته به خاطر اینکه میگه که آشفتگی ها رو بیشتر میکنه یک همچین نادم خلاصه این ماجرا ماجرا اینطوریه که در واشنگتن خبرنگارا خیلی درگیر و مشغولن با این خبرهای 24 ساعته‌ای که از کاخ سفید میاد سختم بود کارشون نه فکر می کنم که هم سخت به خاطر اینکه سرعت تحولات خیلی بالاست برای یک خبرنگار یعنی تو توی, دی سی، توی اگر باشنگ. اگر دو روز تو از کارت بری بیرون بخوای تعطیلات بری واقعا اگر دو روز بعد برگردی اصلاً شاید هدونی حجمی... آره... این آدما کی ان <تصفح> همه شده همه چی عوض, عوض شده حجم کار خیلی بالاست ولی خب به هر حال از لحاظ خبرنگاری فرصت بسیار برهه جذابی از تاریخ هم هست به خاطر اینکه تحولات خیلی جالب داشتی باشنگتون بودی؟ اصلا یک جای دیگه من همه جا باشنجにجن... خوشحال حال با <laughs> هیجان رو خرف میزنیم نه خب ما هم هر. ببین بخاطر اینکه آخه فضایی که ایجاد کرده مثلا ما الان سرعت اطلاعات اینجوریه که انقدر شبکه های اجتماعی خب رئیس جمهور آمریکا خودش دیگه استاد توییتر بله. در نتیجه تو احتیاجی هم نداره الزامن که تو واشنگتن نشسته بودیم ممکنه که اگر رستورانای اطراف کاخ سفید بری و اونجا با آدمایی که درگیر این داستانو هستن گپ بزنی جذاب باشه مهم. اما همینجا در پروگرام که نشستی و دنبال می‌کنی از کامپیوتر تلویزیون و به هر حال خ... سایر خبرنگاری که دور دنیا هستن این گفتمانه در جریانه و فکر میکنم که به اندازه کافی هن... الانم جذاب هست خب یه مطلب دیگه هم بهش اشاره بکنیم که این هفته خیلی سر کرد خصوصا تو فاز مجازی اونم دست دادن آقای ظریف با همتای عربستانیش بود وزیر امور خارجه عربستان و داستانش چی بوده اینا هم‌طریق رفیق بودن ببین آقای ظریف آره دیگه آقای ظریف گفتم ما دوستی قدیمی داشتیم و به هر حال ببین چند تا مسئله هست یکی اینکه اول خیلی‌ها گزارش کردن که این اولین بار از زمان قطع روابط بوده که یکی از خبرنگاری که همراه وزیر خارجه ایران سفر میکنه من میدیدم که میگفت که این اولین بار نبوده و سال گذشته در هاشیه اجلاس مشابهی سازمان کشورهای اسلامی در اندونزی اتفاق افتاده بوده و دست داده بودن اون چیزی که مورد توجه قرار امس... گرفته سال البته با سال گذشته خود فرق میکنه بعد از این تنش آ... آره ولی سال گذشته هم همچنان روابط دیپلماتیکو قطع کرده بودن با عربستان قطع کرده بود با ایران یعنی اون موقع هم تنش به هر حال وجود داشت مسئلهی که هست و مورد توجه قرار گرفته بود به نظر میاد که در این دست دادن این بار کمی فضا گرمتر بوده آله. بین دو وزیر خارجه. آقای ظریف گفته که این بخشی از عرف دیپلوماتیکه اون چیزی که برای من مهم بود متاسفانه اون منتشر نشد ویدیو اگر که منتشر میشد از این دست دادن دو وزیر خارجه، اون وقت بیشتر متوجه میشدیم که چقدر طول کشیده چقدر حرف رد و بدر شده ویدیوی سلام پرسی. من ویدیوی ندیدم چند، چندین عکس آمده که وزرای خارجه فل... جو... اردن فرستین، ترکیه اینا حاضر هستن در آه. زمانی که اینا دارن دست میدن ویدیوی اما نیست. ویدیوی نیست برای همین نمیتونی بدونی که آیا فقط این یه دست دادن رو سلام کردن بوده یا این که مثلا چند ای هم رد و بدر, و بدر شده برحال آقای ظریف گفته که موضوع عادی بوده نه این به هر حال بخشی از دوتایی با هم, نه نه. نه با هم <تصفيق> آره به خاطر این که آقای زریف توضیح داد گفتش که در خیلی از این اجلاس ها معمولا یک بخشش مهمانی نهار یا شام هست در کشورهای غیر مسلمان ایرانی ها معمولا شرکت نمی کنن به دلیل غذای حلال و غیر حلال آلی. و ها اما وقتی که در ترکیه بوده به طور مثال و سازمان کشورهای اسلامی میزبان این زیافت بوده, بوده ایرانی ها هم شرکت کردن و از همین جهت خب به حال فضای سمیمانه بوده از یه فضای خشک و رسمی خود اجلاس یعنی خوشعراب و, و اینا نزدن دیگه <تصفح> نه دیگه کشورهای اسلامی و اینا فکر نه. باشه دارخالت میخورن که بخی دیگه اون هر کسی کار خودشو بکنه دیگه من دخالتی نمیکنم تو اون موضوع ممنونم <تصفيق> از زدهانا هانا رو میتونید روی توییتر با شناسه هانا کاویانی فالو کنید تا هفته دیگه <تصفيق> Questa estate non si dorme Me la bevo un cocktail Questo ritmo che mi muove i problemi sono altrove che cuffie sulla testa viaggio sotto l'ombrellone Prendiamoci le stelle che razza non ci serve Uscire fare le Voglia di andare più volte ci basterà questa voglio vedere le della soltanto con te non chiedo la luna non ballo con te lasciamoci tutto alle spalle io e te fino a che nasce il sole spengo tutto per due ore che mi scarda anche il mio nome Devo birra con limone senza ghiaccio per favore andiamo non so dove di framiamo cinangover scottiamoci la pelle poi cambiamoci colore ti vorrei acchia' le luci cambiare voglio con te con te non non te I <laughs> شیت خواب تو می‌دیدم مودار شده بودی بعد با جلال ناسیک فروشی باز کرده بودین بعد دیگه من رسیدم اونجا داشتی رو اعداد مختل ریاضیات از جنس اعداد مختلط کار میکرد. این جنسش خیلی مهم بود دادم رو خیلی تاکید داشین جنس اعداد مختلط داشین کار می‌کرد نمیدونم چه جوری بود بعد خلاصه هیچی دیگه گفتم در جریان باشین و اینا بابای, مو... بابای حسین و کیوان و مهران چش... از آمستردام بله چش... از آمستردام بوده خیلی خب برحال برحال چیز بوده دیگه چه شما جنس شد خوب بوده از خواب ما میبینی <تصفح> چه خوابی آقا اعداد مختلف چه رب تیبت لاستیک فروشی داره چی زده بودی بابای حسین و کیوان اینا یعنی چی به بدن زده بودی یا منظورم اینه آمستردام خب رستورانای خیلی خوبی داره منظورم اینه شام سنگین و اینا زده بودین این دیگه و حال لاستیک خوب خاصی ما در خدمتیم دیگه جلالوانه سا اینجا بپری اجاپ پرجستان اندونزی پام میار با سا آقا تو ما یه بار دیگه این اعداد مختلف ریاضی حساب کنم به جو خانم و آقایون دختر خانم ها آقا پسر ها شنوندگان رادیو فرد و 5 شنبه. الان کشور ما چندین و چند تا بحران داره بحران خشکسالی و کم آبی بحران آلدگی هوا و ریزگرد ها بحران تصادفات جادهی و بحران احمدی نجاد و رفقا. یعنی بحران آخریه واسه خودش اصلا دست کمی از اونای دیگه نداره خدا وکیلی. هفته پیش در آزاد شدن آقای بقایی یکی از دست راست‌های عثمان محمود خب خیلی حرف زدیم حرف‌های ایشونو شنیدیم و بقائی جان و بقیه دوستان داشتن بعد از بیرا میگفتن به قوه قضاییه آقای ایجی و این حرفا این هفته هم این ماجرا همجوری اتمام پیدا کرد ظاهراً تو حیات دفتر اوسامی مراسمی می‌گرفتن که بلبل مراسم و سخنگوی مواضع تیم این دفعه مشایجون بودن مشایجون در یک از جالبش در مورد آزاد شدن آقای بقائی جوری حرف زد آدم شاخ در می آورد الان داریم میگه چطور شد که بازداشت بقایی به پایان رسید؟ چگونه به پایان رسید؟ با فشار مرد، با استادگی آه. مرد، با مقاومت مرد، عجب. با همدلی مرد، با پشتیبانی های فکری، روحی و معنوی مردم به پایان رسید، با همکاری مردم به پایان رسید آخه نو کردتم استادگی مردم؟ آخه من نفهمم یعنی رفتین 20 میلیارد تومن وسیقی گذاشین طرف آوردیم آوردین بیرون بعد مردم استادگی کردن. یعنی یکی ندونه فهم میکنه میلیون ها نفر تو این چند روز اعتصاب کردن و تو خیابون ها ریختن و زدن و کشتن و بردن مثلا اینا که بقایی آزاد شده تازه در ادامه حرفاتشون هم بقایی جون رو در حد مثلا سوپرمن اینا میبرن بالا 15 روز اعتصاب غذا مرد میخواد جوان مرد میخواد دلیر مرد میخواد باشه خیلی خب حالا اصلا بقایی خیلی مرد خیلی مرد خیلی کار درست. ولی آقای مشایی خوشکل و قشنگ مامانی و اینا این همه زندانی سیاسی عقیدتی تو ایران اتصاب غذا میکنن همین الان هنگام شهیدی روزنامه نگار از فرط فشارهای دوران بازداشت تو اتصاب هایی که کرده سلامتیشو از دست داده رسمن بعد بقایی جان چهار روز اتصاب غذا کرده خیلی مرده الان دیگه خسته نباشن در ادامه حرفه استاد مشایی برمیگرده به بحث جن منت ها جن خوب و بد و اینا نما مال اون خانواده عارفینا نه اون مال اوشون بوده جن ترس من تعجب میکنم از بعضی ها که در جهلت و در ظلمت نشستان اینا احمدین شاد تهدید میکنه احمدین شاد مگه یعنی شما طمع کردید به ترس احمدین شاد یا یعنی هم باور نکردید محمدین شاد گفت نفهمیدید که این جن ترس تو وجودش نیست اصلا آخه آخه نیست اصلا جن ترس در وجود آقای احمدین ایجاد نیست در همین مراسم توی یه سخنرانی دیگه مشایی جان بازم قاطی میکنه خطاب به قوه قضایی و حاج صادق لاریجانی و محسنی ایجه ای اینجوری میگه خیلی بی خود میکنی تو دراه... <حور> <تصفح> تو کی هستی که این کارو بکنی <حور> <تصفح> تمام اعتبار تو یه برگه است خیلی بی خود میکنی خیلی بی جا میکنی هر جا شهرس کردید میگم ش اون بانین چقدر بان این مشایخ خیلی شجاعه حزمم نمیذاره بکنه حرفا خصوصا اون بخش از حرفاشو بعدم انقدر حرفا همینجوری از این حرفا هم میزنه حرف همینجوری میاد جلو و اینها کم کم انقدر بحث حیوانی میشه پای دوم شیر و دنبه و اینا میاد وسط خودتون گوش کنین دیگه مسی که اصلا حواست نیست با دوم شیر بازی میکنی مخاطبتو ملتت تو با شیر بازی مونتا تو تاریکی هستی دنبه رو میبینی آبه. ادامه ضررب و مثلا ایشون ماام راش نفهمیدیم می ضر و ئله چه که ایشون استفاده کردن چی بود؟ شاید مثلا توی مایهایی که دنبه رو می بینی دمش رو نمی بیننی، دنبر رو بینی, بینی. ولیب بیب بینی حالا دیگه دنبال رو می بینی. ولی نمیم پونش چه نمی بینی. دیگه نفهمیدیم خلاص شما اطلاعی از این دمبهه دارید به ما هم خبر بدیم ببینیم دنبه چی دقیقا مد نظرشون بوده دنبه اوس معمود بوده دنبهه بقاایی بوده. تومبه بهار بوده چی اصلا اما مشای جان در پایان فرمایشاتش یک خاطره هم از عشاق چینی اوز محمود گفتن که اینم گوش کنیم با همجا از محبت مردم چین ما خودمونم اونجا دیدیم اونجا بالاخره منجا صف کشیدن مردم با اون که اطلاع رسانی هم من نه بود یعنی همون جایی که ما یه جای اومدیم بازدید کنیم افراد دیدن ایشونو نه اطلاع قبلی جمع شدن اونجا دست میدادن شعار میدادن ما متوجه نمیشدیم شعارها رو به دقت ولی روحیه، علاقه لبخند شادمانی ولی ترجمه می‌خواد نمی‌خواد به خدا ترجمه می‌خواد بابا مشای جان ترجمه از کجا مطمئنی آقا شاد یه سری چینی اومدن با لبخند با آدم فحش دادن شما بعد مثلا با لبخند جوابشون بدی فکر که مثلا اینا دارن تعریف میکنن حالا دیگه من بعید میدونم از این فرصت تا پیش بیاد البته با این وضع شما هم از اسب افتادید دیگه بساط این که نون دست خانم بچه‌ها رو بگیری و برو با هم سفر خارجی و اینا تموم شد به قول استادون دیگه اون ممه رو چی لولو برد یا اون حالا دنبه رو به قول شما لولو برد یا هر چی اما حرف اوس محمود شد این هفته خبر عجیب غریب هم اومد که دادستان دیوان محاسبات گفته محمود احمدی نجاد در هفت پرونده غیر نفتی و نفتی محکوم شده از جمله تو پرونده 9000 هزار میلیارد تومنی بابک زنجانی ایشون ادامه داده بود که کل دارایی محمود احمدی نژاد مزروی مخونم دقیقا این بوده کل دارایی محمود احمدی نژاد دو میلیارد تومان هم نمی شود اما به گفته این مقام هرچه را بشود قسطی پس گرفته خواهد شد و این نهاد مترسد است اگر مالی به او اضافه شود کسر کند یعنی موخ آدم سود میکشه دیگه یا رو رئیس جمهور مملکت بوده یه قلم از هفت قلم تخلف ثابت شده نو هزار میلیارد تومانه بعد میگن قسطی ازش کم میکنی و طرف میخواد وام بگیره یه پراید فکستنی بخره سفته و فلان و اینا میخواد معرف میخواد دو روز هم قسطش بیفته بانک اینقدر پر و پای خودش و زامنش میپیچه جدش بیاد جلو چشش بعد اینجوری که میگن هزاران میلیار تومن پولو خوردن رفته پیکارش میخوان قسطی ازش بگیرن دازه راست راست داره را میره همجین میگرده هر روزم داره براشون شاخشونه میکشه و نمیدونم اعضای تیمش هم بقایی و محشایی و اینام که هرچه دهنشون در میاد بارشون میکنن البته خود اوسان بیکار ننشست در جواب این حرف دادستان دیوان محاسبات ایشون بی بیانیه داد و گفت حرفهای ایشان مستاق مجرمانه اشاعه اکازیب به قصد تشویش از عمومی خلاف قانون اساسی و مستوجب تعقیب غذاییه میبینید تو رو خدا؟ یادتونه یه زمانی معظمله می اومد می گفت نمیدونم نظر بنده به ایشون نزدیکتره بود نمیدونم این حرفا یادتونه دیگه اگه یادتونم نیست ما یادوبری میکنیم تا همه بدونن ریشه این ماجره ها از کجاست چون یه زمانی همین آقای اوسا به مردم می گفت خس و خاشاک بله سال 88 همین آقای اوس محمود می گفت خس و خاشاک بارها و بارها هم رو جبش حرف زدیم اون یکی آقای ببخشید منصددا گرفت اصلا بحث خص و خاشاک شدصددا گرفت. اون یکی آقای معظم له هم همینجوری قربون صدقش میرفت و نظرشون به نظرشون نزدیک بود نتیجهش هم شد این نمیدونم دیگه بعد میگیم چرا کشور پسرفت میکنه. آقا چرا پیش پپه پی پی کشور پس رفت میکنه؟ با این شرایط، با این وضعیت، با این آدما با این اوسم حمود، با این مشایع و بقایی اگه نکنه باید در بیاریم به خدا oh, yeah. به تو محکم روی زمین باز بکوه تا تازه اول مسیر روی پاش انتهای این مبارزه برد با ماستو وقت نیست پاشو بگو من ادامه میدم محکم روی زمین باز بکو، اول مسیر روی پات بمون انتهای این مبارزه برد با ماس ماستو وقت نیست پاشو بگو من ادامه میدم باشه فردا ماکت بچینم میرم جلوی جای اینکه ساکت بشینم ادامه میدم تا وقتی حرف هست آتش پشانو نمیشه با بس له شدم وقت دیوات خون چه میدادن توی اوج درد و اوج بی دادن. تا الانم به دردان فر میدادن ببین من یه پا پر چه میدادم ادامه میدم مرسا رو میشکنم اینو میکم به اونا که حرفامو میشتن یه ارق با دوام یه عشق ناتمام بستگی داره به قیمت و به نرخ آدما ما چرا اینه که اونی که نداره بایکوته نا مرگ مرکز زندگیت پای خوده وقتی که نداری ارزشی نداره کال بوده تو بدون این روزا یه بار کده من خوردم زمین و همه نزارک نگاه شادشون به دردم اضافه کرد همونا که داشتن توی عقد میمر اونا که سر سفره مالو می خوردن. تو اینو فهمیدن ما زمین خوردیم تماشا میکردن و تخمه میخوردن منم جواب دادم با یه آه بلند اونا نشستن و منم تو راه قلم اونایی که منو به حال خودم رهام کردن تو دردم ناله کنم فعلا مهم هدف ولی وقتش میرسه که زندگی ناواشون پاره pore کنم با تو محکم روی زمین باسه کجا با اول مسیر روی پاش انتهای این مبارزه برد با ماستر وقت نیست پاشو بگو من دامه میدم محکم روی زمین باز بکوب اول مسیر روی پات بمون انتهای این مبارزه برد با ماست میچو وقت نیست پاشو بگو من دامه میدم اون که پای خانواده جنگی خاطرات مثل کوله بار سنگین رو دوشمه هنوزم از آبم میده ولی به زندگی بازم چوابم اینه هی زندگی چی کار کردی با من تو اینو ببن بگو تو نامردی یا من اینم بدون این توی که تشباختی من ادامه میدم هنوز منو نشتاختی هرکی زر به زد من بخشیدم بیشک هرکی زخمیتر بخشیتر میشه اونا خواستن من برم و بر نکردم منی که برنده هر نبردم منی که تو ظلمت سر نکردم با سرسیدن شان صد نکردم و با صفر یه کاری کردم مطمئنم خیلی یه با صد و صد نکردم آف یا من دامه من ادامه میدم من ادامه میدم من می من, می من, می من یه سوال از شما میکنم مردم کلم شکسته و دهان بسته آجان تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن نگرانید؟ ناراحتید؟ تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم. یه نکته دیگر این است که ما از عددیگا سیاسی دشمن استفاده نکنیم من اینو تأکید میکنم چرا آدرس غلط به مردم میدید؟ از زمان هم می نامم. زمانی کی می شد آقا؟ در مستند رادیویی تقابل با وحید پورستاد همراه شدید. بعضیا نمیدرم چرا ماشین دودیان، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنند. تقابل، مستند تقابل، کاری از کار جدیدی از همکارمون در رادیو فردا وحید پروستاد که میتونید روی کانال تلگرامی رادیو فردا این برنامه رو به صورت کامل بشنوید همچنان با شما هستیم ساعت چهار و شانزده دقیقه است و تا ساعت هفت با شما شماییم با ایستگاه پنجشنبه کاه پنج شنبه چند وقت پیش سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد دوستان سی درصد غذایی که مردم ایران میخورن اضافه است بعد باز برین سیاه نمایی کنین بگین وضع مملکت خرابه و مردم سر گشنه زمین میذارن و اینا شکر خدا ما الانشم سی درصد بیشتر از کوپنمون داریم می‌خوریم دیگه سخنگوی وزارت بهداشت دیگه احتمالاً رو دربایسی کردن وگرنه اون مثال کا و کاه و کاهدون هم تای فرمایشاتشون بیان میکردن خب برادر من خواهر من نخورین انقدر دیگه حتی یه نکته داشت این صحبت ها و اون این بود که ایشون نان و برنج رو دوتا از مواد غذایی عنوان کردن که مردم ایران در مصرفش معمولا زیاده روی میکنن خب وقتی گوشت کیلو شست هزار تومنه طبیعی ملت سعی کنن شکمیشون رو با نون و برنج سیر کنن دیگه. سفری خیلی از مردم که بری میبیید سه تا دیسپلو گذاشتن وسط دو نلبکی هم دو تا نلبکم خورش کنارش والا به خدا ایرانیام دوست دارم از خارج ها بشقا و غذاشون ه درصدش گوشت و ماهی و سبزیجات و نخود سبز خصوصن و اینجور چیزها باش مخصوصا گفتم نخود سبز دقت کنید حضور نخود سبز توی بشقا مقص وقتی با چنگال خورده بشه خیلی کلاس داره اینو یادتون یادتونن خب مردم ما هم بشقا های اینجوری دوست دارن حال بغلش هم دو تا قشق برنج حالا یه کف دست ن بخورند دیگه. ولی خب اینجا از بچگی آقا فرهنگ بانون بخور سیرشی تو همه ما نهادینه شده اینه که یه بنده انگش پنیر رو میمالیم رو نصف بربری طعم پنیر مثلا بگیره بتونیم بخوریم یا یه دیسپولو رو با دو تا قاشو خورش می‌خوریم که اکونومیک باشه همین میشه سرانه مصرف برنج و رو میزنه بالا مؤالبه بذات به دو شاکی میشه میگه 30 درصد زیادتر از حد خودمون هم داریم غذا می‌خوریم البته حالا یه کاری هم میشه کرد تعهد چطبی بدیم که سی درصد که نه 70 درصد از جیره نون و برنج کم کنیم ها؟ به شرطی که مسئولین هم تعهد بدن جای این 70 درصد یه کاری کنن ها دقل یه 10 درصد گوشت و مرغ و ماهی و اینجور چیزا بیاد سر سفره ها والا بلا ما راضی هستیم راضی هستیم دیگه تو بگو دیگه چی کار باید کنه دلم شاید عاشق ترشی تو میدونی تو دلم آتیشه بگو چجور میشه عاشق ترشی تو میدونی این دل به موبنده از هرکی غیرتو دلکنده تو همونی که با تو دلم آروم چشمه خیلی چیزا مونده چقدر تو رو دوست دارم فقط تو رو دوست دارم تو هرجوری باشی خوب یا بد تو رو دوست دارم با این دلم مونده چه میشه تو چمونده چه میتاپه با ساخت من فقط تو رو دوست دارم چقدر تو تپ من فقط تو رو دوست دارم ام حواشی شد حالم بهتر شد یه نفر عمر دوپی تو شوم که تو دلم جا شد حالم بهتر شد اونی که حالمو ابس کرده هی باشه عطش و حواس کرده حرتو آره اون چویی که میخوامش عشق من دل بده به من با چقدر تو رو دوست دارم فقط تو رو دوست دارم تو هر جوری باشی خوب یا بد تو رو دوست دارم با این دل و مونده چه پیش تو جا چه که میتپه واسه من فقط تو رو دوست دارم چقدر تو رو دوست دارم تو علیرغم جوونی و تازه کار بودن یکی از پرسر و صدا ترین مرگ جامعه هنری ایران شاید مرگ مرتزا پاشایی باشه خانندهی که تازه چند سال از انتشار اولین آلبومش نمیگذشت که مبتلا به سرطان شد و بعد از مدت کتایی هم طرفدارانش رو ترک کرد و موجی از ازاداری و سوز و گداز رو بین اونها به جا گذاشت بحانه این حرفها، اما بیستم مرداد سال روز تولد مرتزا پاشاییه جوونی که به عبارتی همیشه زود بود زود معروف شد، زود با سرطان درگیر شد و زود هم از بین ما رفت به هر حال جای خوشحالیه که هر چند مرتزا پاشایی دیگه بین ما نیست اما میتونیم صداش رو در قالب فعالیت های هنریی که در طول عمر کوتاهش کرده حالا حالا ها بین خودمون داشته باشید یادش گرامی و تولدش مبارک حرفی بگو دوستم داری من که دارم بیا برگرد نذار بی تو جایی برم بیا برگرد دل من برات پرزده بیا تنها نروای جدایی بده تو دل من تنگ شده باهce چشمای تو دل من رجای می دنم باهنتو بیا احصا سمت من خالق من ما بیا تنها نظر دیگر برگرد بیا تو کمیدنی بیشه همه خالق من راست جان سلام، خسته نباشید خوبی؟ سلام علیکم قربان، چه اخبار میدو؟ داره ارژون میشه. ما بودی. با ماشین جلالت هم یه تعدیلی پی او انجام کرده بودیم. میتونه واسه ما سه این دفعه اینو کرایده хоستل بخریم. جلالتم کرونا دارن چنجان. قربونت برم فدای شما مریسی از تماستون. آقا راست میگه دیگه من دردمو به کی بگم؟ آقایون، خانما، برادرا، چنبنده ها آقا الان توی روزی که معظم له حکم ریاست جمهوری شیخ حسنو تنفیذ کرده، بس اینی که نمیدونم کی وزیر میشه کی نمیشه وزیر زن داریم نداریم شهردار تهران کی میشه این حرفا این حرفا باید داغ باشه ما باید همه نگران و شرمندی پیاز باشیم آخه منم این انصافه ما چطور به اینجا رسیدیم که پیاز هم حتی شروع کرده برامون کلاس بذار آخه چرا باید یه کشوری اموراتش انقدر پیازی بشه سه سعود الا همه نگران گرونی پیازن همه مداح و ذکرگوی پیازن ما چه گناهی کردیم آخه چه حیزم تری به کی فروختیم که پیاز داریم بلا هر سر ما میاره یعنی این همه آقای آقای زریفینا با اون خانم مگیرینی اونها نشستن درباره باره برجام و مسئله هستهی و راکتور و کیک زرد و فلان و این حرفا حرف زدن نکردن یه تبسرم در باره پیاز بذارن تو برجام مثلا یه تبسرم میذاشتن تا یه وی قیمتش نکشه بالا اینجوری دیگه پیاز جان پیاز جان ما خیلی مخلصی ما خیلی مخلصی درسته ما مدت ها حال شما رو تحقیر کردیم وقتی میخواستیم به یکی بگیم ما خیلی غذاهای ساده و دم دستی میخوریم میگفتیم مثلا یه نونو پیازی هست و اینا با هم میزنیم ولی شما که مناعت طبعت بیشتر از این حرفا بود که به دل بگیریم این چیزا رو اصلا گر نیک بنگری همه ی خوراکی های دنیا اول تو پیاز تفت داده میشن بعد قابلیت خوردن پیدا میکنن اصلا ما از طرف همه معلم آشپزی های کل عالم هستی از شما معذرت می که وقتی میخواستن مواد تشکیل دهنده غذاشون رو بگن میگفتن پیاز به اندازه کافی این اشتباه بود این اشتباه بود اخه لامصب یعنی چی پیاز به اندازه کافی پیاز به اندازه که خود پیاز بخواد اصلا شما خود تعریف بگیر جناب پیاز نمندن آقایون از بعد اگه خاصین تقاضای ازدواج کنین به حلقه حلقه به قول خارجی کیا رینگ رینگ فقط آنیون رینگ یعنی هم این پیاز حلقه سرخ شده هی هیچکی نه نمیگه تو فضل مجازی هم که دیدید جناب پیاز چقدر در حسنهای شما ملت هنر نمایی کردن این چند روزه مثلا یکی گفته بود لاف جدید دخترهای اینه که خاستگار پیاز فروش براشون اومده یا مثلا مهدی توییت کرده بود بعضی ها انقدر دستشون برکت داره به سیب زمینی دست بزنن پیاز میشه بنابراین سخت نگیر شما ما که بابا نه سر پیازیم نه ته پیازیم ما ارادتمند پیازیم پس شما از این همه گرون شدنت کتابی ها شاید تونستیم به مسائل کم اهمیت خبری مملکت و دنیا هم برسیم دست درد نکنه دست درد ن... پیاز تیم اصلا به مولا به قول غزل صادات یک نان و پیاز پیشانی باز اینه بیشانی باز بنشین شیندم که عمری تو دراز سر خط خبر حرف به خطر های مش در سان حرف تو شکر لینه سن روز و بحث پیاز که بگذاریم سخن اقتصاد بهتر است بریم سراغ آرش حسنی ببینیم مقا پیاز چرا گرون می‌شد یعنی چی چه وضعی علیکم. سلام علیکم، حال شما نبود این یه سه هفتهی؟ ها رو بالاخره بله. گرفتین و رفتین بله. سفا سیتی؟ بله، ولی بله. بله. جا خلی خیلی خوب بود بله، اما خب دیگه همین که نمیمدیم اینجا و این ایسگاه رو نداشتیم و اینا اصلا دل هم دل, دل, دل, دل تنگ نه به خدا دلم تنگ میشد دلم آخر بارو به خدا، دلم تنگ شد،, شد. بالا آره خصوص آه. که این پیازم دیگه پیاز آه. آقا چرا آرش آره. داستان چیه اولی اصلا... نم جوک ساختن حالا آره. نم جوک حرف حالا شوخی هم کردیم ولی واقعا داستانش چیه اول اینکه من فهمی که چون این کار افغان بود خواننده آره. آره خب معلومه که این مشکل پیاز قبلا تو کشور همسایه بوده که براش در نعتش ناز... اینجوری آره. آره نانو پیاز الان دعوت کنیم خواننده‌های پاپ خلاصه‌ای چیزی در باره پیاز بخونن چون دیگه حالا به ما هم رسید آره فارسیا نذاشتن من خیلی گشتم چیز پیدا نکردم دیدم که در باب پیازی خب حالا حضرت... چی میشه که یه دفعه یه اتفاق این شکلی یعنی یکی از این اقلام مصرفی یا حالا چه من یادم جوجه فرنگی یه وقت من پیاز چی میشه که این اتفاق حالا اتفاقا رشید حضرت... خود... من میخواستم بگم که پیاز باره اولش نیست اتفاقا شاید مثلا, اتفاقا. اتفاقا. شاید مثلا اتفاقا. این اینکه الان شبکه‌های اجتماعی و بالاخره شهروند خبرنگارا و اینها چی شده این داستان پیاز انقدر بالا گرفته البته خب خیلی شوخیش البته خیلی بیشتر از آره ش... اصلا آره چون سالهای زیادیه که بخصوص به بین به پیاز و سیب زمینی این اتفاق میافته و به تناوب هم میفته یعنی یک سال پیاز خیلی گران میشه و سیب زمینی ارزونه سال بعد دقیقا اتفاق برعکسش میفته چرا برای اینکه اونایی که سال گذشته پیاز کاشته بودند و پیاز ارزون بود به خاطر عرضه زیادش و سیب زمینی میکارن آره سال بعد فکر میرن سیب زمینی میکارن به خاطر اینکه خم... فکر می‌کنن که خب دیدید پارسال سیب زمینی گرمون بود و سال بعد اتفاق برعکس برای سیب زمینی میفته. جدی همین اتفاق براش میشینه. حالا امسال یه دلیل دیگه هم داره برات میگم. اما این نکته پیاز و سیب زمینی یعنی این بازی آلاکلنگی که سالهای سال شاهدش بودیم ما یه مشکل اساسی تو کشاورزی ایران رو نشون میده و امه. اون سنتی بودن کشاورزی ایران و نداشتن یک بانک جامعه اطلاعاتی یک جایی که کشاورز بتونه به اونجا مراجعه بکنه یا بهش توصیه بشه تورستی. که مثلا امسال چه چه... آره آره امسال آره... اصلا نیاز چقدره امسال توصیه بهشون بشه که امسال این طرزی کشتتون این باشه آقا نسکشو اصلا پیاز آره زمین و... دقیقا این مثلا جای دیگه هستش واقعا نداشتن یک بانک جامعه اطلاعاتی برای کشاورزی ما و اصولا سنتی بودن بخش کشاورزی ما سنتی بودن یعنی مثلا کشاورز خودش تصمیم میگیره خودش تصمیم می خودش میگیره و کشتش کشت صنعتی نیست بهره وریش پایین هم به لحاظ مصرف آب هم به لحاظ اینکه کی کودهی بکنه چقدر مم. کود بده کی سم بده چقدر سم بده اساساً شیوه کشتش درسته زمانی که شروع می‌کنه سال‌های سال مثلا پدر و پدرجد و پدربزرگش هر کاری که می‌کردن کشاورزم خیلی از جاها کشاورزی صنعتی هم هست تو ایران اما بخش عمده کشاورزی تو ایران سنتی و فاقد این اطلاعاتیه که کمک میکنه بهش که به یک تولید بهینه برسه یعنی به قول تو اصلا بیاد مزرعه شو تقسیم بکنه اصلا بدونه که امسال باید چه حجمی کاره بدونه برسته. که برنامه صادرات چیه بدونه این که ام تقاضای بازار چقدره خب اینا وجود نداره درسته. پس اون همون اتفاق میفته که امسال پیاز میرسه بالای چهارهزار تومان و سال دیگه کشاورز این سیب زمینی کار درسته این تو ذهنشی که سال پیش پیاز درسته. نکاشتیم گرون شد. گرون شد امسال پیاز میکنن همه پیاز میکران سال دیگه سیب زمینی میشه 5000 تومان حالا غیر از این دلیل دیگه گفتی دلیل دیگه دلیل, دلیل, دلیل دیگه هم داشته اون هم صادرات بوده مهم. خب تو خبرها هم داشتیم که قطر آه. خیلی از چیزاش از دست رفت اون روابط تجاری که داشت به خاطر اون تحریمایی که شد و ایران و ترکیه در واقع جایگزین شدند از اون بازارهایی که داشت مواد غذایی یه نکته‌ای بر... که این روزا خیلی گفته شده در باب ق... علت گرونی پیاز صادرات پیاز به قطر. بیرون از ایران بود که یکی از بازارهای جدید قطر بوده درست. که خب البته میدونید تو ایران یه مشکلی که هست اینه که چون اقتصاد دولت خیلی تو اقتصاد نقش داره و نقشش خیلی پررنگه همم هم انتظار دارن که دولت بیاد یه کاری بکنه و چرا کاری نمیکنه اینها واقعا تو کشورهای دیگه که اقتصاد دست خود مردم و بخش خصوصییه بله. خب اونجا هم صادر میکنن عوضش یه وارد کننده هم اونجا هست که سادر کننده خیلی هم کار خوبی میکنه که پیاز رو میکنه به کشور دیگه اگر واقعا سود بیشتری میبره خب اینم به نفع اقتصاد ایرانه ولی خب آخه داخل, داخل, داخل کشور بخان رو سپورت بکنه میخوام بگم برندزی. که توی یک اقتصاد سالم استاندارد رقابتی یه وارد کننده هم هستش که میبینه بینه بازار خوبه الان تو داخل مثلا پیاز شده اینقدر او میتونه خوب پیاز از یه جایی دیگه ارزون تر وارد بکنه و به دست مصرف کننده برسونه هم مصرف کننده ذر نبینه هم کشاور ضرر نکنه هم این وسط تاجری هم که این کار رو داره میکنه اونم سودش رو بره یه مشکل دیگه یه بخش کشاورزی ما هم که شاید الان حالا به خاطر همین پیاز بعد نماشه که مدام هم اشاره میشه و البته هیچ کاری هم راجبش نمیشه اینه که ما صنعت فراوری و صنعت نگهداری محصولات کشاورزی در ایران بسیار بسیار ضعیفه دلسته. یعنی ما سردخونه به اندازه کافی نداریم، شیوه های فرآوری نداریم. مثلا اگر همین کارخونه هایی باشن که همین پیاز رو بتونن خشک بکنن، بتونن سرخ کرده بکنن، بتونن هزار کار میکنن دیگه با محصولات دیگه سیب زمینی رو پوس میکنن، فراوری میکنن، نمی دونم میپزن، کنسرو میکنن. محصولات دیگه هم میتونیم همینجوری نامه بریم مثلا فصل پرتقال هم که میشه ما باز باید برنامه بسازیم که آقا پرتقالو گندیده، پای درخت ها توی باقای شمال یا باقای جای دیگه عوضش توی تهران مثلا پرتغال کلوی فلان هزار تومنه و باغدارم این وسط سودی نبرده درستان این نظام توضیح محصولات کشاورزی و تولیدش یک نظام ناکارآمدیه در ایران و صنعت فرابری هم صنعت زعیفیه نمیتونه اینا رو نگهداری بکنه همین این شکلی میشه یعنی ما سر سیب هم همین بساطه داریم سر انگور همین داریم همه محصولات, هم محصولات این مشکلات داریم س... به دولت شارع کردی و مشکلات اقتصادی که از دولت جدید حالا امروز هم مراسم تنفیز آی روحانی بود اه... یه خبرهای گوشه کنار میاد و میشنویم به سر و ام... تیم اقتصادی دولت دوازده هم چطوریه؟ آره فراوون فهرست ما تو این هفته‌ها خوندیم و احتمالاً کوتاه و خیلی مختصر بخوام بگم که اصلا چه اتفاق غربی قراره بیفته اصلا بهتر آه... میشه تغییراتی تغییراتی قراره که راستش تو تیم اقتصادی مهمترین تغییری که تا این جای کار البته همه ای که داریم میگیم باز قطعی نیسته اصلا درسته. این شنیده‌ها و گفته‌ها و این‌هاست مهمترین تغییر ظاهرا در تیم اقتصادی دولت کنار رفتن آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و جایگزین شدنش با آقای نهاوندیان یعنی این بیشتر از تغییر بزرگ یه تیم اقتصادی اینه آقای نهاوندیان الان رئیس دفتر رئیس جمهور اقتصاددان اما امکان اتفاق بهتری بیفته با اما کارنامه کاری خیلی پرباری آقای نهواندیا نداره یک دوره معاون وزیر بازرگانی بوده یک دوره رئیس اتاق بازرگانی ایران بوده اون تجربه ریاستش توی اتاق بازرگانی که حالا به هر حال بخش خصوصی و این یه خود امیدوار کننده است اما آقای نیا اقتصاد, خیلی سر، اقتصاد دونه خیلی سرشناسی بود همون موقعی که اصلا انتخاب شد بهش میگفتن یعنی از این تیتری که می‌زدن میگفتن به تورم چون که تمام کار پژوهشی و پایان نامه هاشو اینها راجع به تورم و واقعا هم نرخ تورم رو تونست کنترل بکنه یه انتقاداتی به عملکردش بود تو حوزه خصوصی سازی یا بحث مالیات ها در مجموع من فکر کنم که آقای طیب نیا کارا می کاری نام و مفقی نداشت و شاید یه خود عجیب باشه تغییرش تغییر دیگه‌ای که توی تیم اقتصادی دولت احتمالاً اتفاق می‌افته چون آقای نوبخت توی سازمان برنامه بودجه احتمالاً می‌مونه تغییر نمی‌کنه آقای زنگنه پذیرفته که وزارت نفت رو همچنان ادامه بده آقای آخوندی وزارت راه و شهرسازی رو کماکان ظاهرا اتدار میشه. پس فعلا این تغییر همین نه یه تغییر نیاز. بزرگی دیگه هم هستش اون تغییر آقای است از وزارت صنعت، معدن، تجارت که قطعا آقای نمتدزاد تغییر میکنه و گزینه هایی که میگن قوی ترینشون یعنی محتمل ترینشون محمد شریات مداریه که معاون اجرایی حسن روحانی توی این دولت یازدهم که تمام شد و رئیس سهاده انتخاباتی آقای روحانی بود. خاطرتون باشه آقای شریعت مداری دوره آقای خاتمی وزیر بازرگانی بود یعنی درسته. بی تجربه نیست تو این حوزه اما خب گزینه‌های دیگری را هم میگفتم مثلا رضا ویسه که از نزدیکان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که زمان وزارت صنایع خود آقای جهانگیری معاون آقای جهانگیری بود گزینه‌های دیگه هم میگن اون وزارتخونه حتما تغییر میکنه ولی دو تا وزارت خونه احتمال و... وز... وزیر نیرو هم تغییر میکنه آقای چیچیان جاش به حبیب‌الله بیطرف احتمالاً میده که تو دولت محمد خاتمی هم همین پست رو وزیر بود اما مهمترین پستای اقتصادی دولت اگر بخوایم یعنی اون ست تا اصلی که وزارت اقتصاد باشه بانک مرکزی باشه و سازمان برنامه بودجه باشه دو تاش بدون تغییر میمونه ولی سیف همچنان رئیس کل بانک مرکزی بر برای اخبار که میشنویم محمد باقر نووخت سازمان برنامه‌بودجه رو همچنان اداره می‌کنه وزارت اقتصاده که علیه تایب نیا جاش رو به محمد ها میده. بسیار خوب. سایر وزارتخونه اقتصادی کماکان همونجور می‌مونه. بسیار خب. حالا باز قطعی که شد راجبش میتونیم می‌تونیم بیشتر صحبت بکنیم که آره شاید مثلا از شنیده‌ها و با هاست باز نهایتا اگر قطعی بشه شاید یه کاری بتونیم فرشید بکنیم و اون همینه که به با توجه به علاقه‌مندی‌های که این آدما مثلا آقای طیب ها علاقه‌مندیش اصلا کنترل نرخ تورم بود درستان. و کار تحقیقاتی پژوهشی تمام دوره آموزشی و تدریسش و اینا رو اون حوزه بود خب میشد یه حرفای و حدسایی زد و اتفاقا اون حدسا هم به واقعیت بدل شد مثلا اگر آقای نهاوندیان گزینه و زد اقتصاد شد هفته آینده اگر چیز بود بعد میتونم من راجب اطلاعاتی آره، که اصلا علاقمندیش نگاهش به اقتصاد چی بر اساس اون یه پیش بینی هایی بکنیم که اقتصاد ایران تو دوره جدید بر اساس تفکر اقتصادی این وزیر به کجا کی... میره خواهد شد و به کجا خواهد رفت ممنونم از حضرت آرش حسنی نیا رو میتونید در, در توییتر کنید با شناسه آرش اچ نیا مرسی You got me thinking about when you were born you شنبه هفته آینده 19 مرداد تا شنبه 21 همه مرداد فرزاد فرزین در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد کنسرت داره که این برنامه در دو و بعد ساعت 6 و نیمه است و 9 و شب برگزار میشه و قیمت بلیتش هم هست 45 تا 140 هزار تومن کار قلبم رو بشنویم از فرزاد فرزین من با این همه افساس من با این دل حساس تو این شرایط خاص ببین دلم فقط تو رو خواست من با دستای خانی ولی یه عشق آلی. آلی درست همین حوالی دارم با تو چه حسوهانی قلبم پیش تو گیره قلبن باست میمیره با دلی که بی تو دلش میدیره آباد تو, تو همه چی خوب به تو همه چی تو باشه. همه چیز سر جاشه دل من از خداشه قلبم فقط پیش تو باشه اگه دلم میگوبه روحی هم مگه خوبه واسه اینه که روبه چشمات همه چی خوبه خوبه قلبم پیش تو گیره قلبم وسط میمیده با دلی که دل تو دلش میگیره. هم تو همه چی خوبه پ تو همه چی باز زرام فرش قیمت پرادو نه کردم کولر که تو بالای 20 میلیون بود تو اینو میدونی هر چی گرانتر میشه بازم جون و الالمیزات با این پرادو ارزانتر میشه خلاصه ارزانش که دیگه به صرف همه دورای بمیریم دیگه با دور از جون این چه کاریه ان شاءالله 7 سال زنده باشی چه حرفیه آقا الان 20 میلیونه دیگه ها هیچ نداره بخون ارزانترش کنن که اصلا میشه ماشین همدلی دیگه نابوق داره نه صندلی یه جوف از این کفشا هست از این کفشا که تایش چرخ داره اینا به بری بیای راحت تری به خدا همتر است هست خیلی ممنونم اما جمعه گذشته دوستان امام جمعه بجنور در های نماز جمعه شون سر درد دلشون باز شد یک گلایه یه اساسی کردن از کسانی که به قول فرمایششون رقیب تراشی میکنن برای نماز جمعه و ملت و روزای جمعه به جای نماز جمعه به جای دیگه میکشونن مثلا چی؟ مثلایشون گفتن که برگزاری جمعه بازارها و نمایشگاه های مختلف و یا کلاس های آموزشی تو روز جمعه باعث میشه مردم از نماز جمعه قافل بشن و این کارها کارشکنی غیر مستقیم برای نماز جمعه است دیگه بالاخره ایشون هم حق دارن دیگه. دیگه برای هر کاسبی دنبال اینه که مشتری خودشو از دست نده زارن این روزا کاسبی برای اعمه محترم جمعه هم کساد شده ولی جای نگرانی نیست ببینین دو تا راه هست برای اینکه دوباره رونق به نماز جمعه اینکه جمعه ها کلا هر فعالیتی به جز نماز جمعه ممنوع بشه به غیر از مثلا مصلا یا هر جایی که نماز جمعه توش برگزار میشه اطرافش باقیه شهر حکومت نظامی اعلام بشه یعنی فقط نماز جمعه این یه راهه خب خیلی راه جالبی نیست دیگه میدونید یه راه دیگرم هم که خب هست بهتره من این راه پیشنهاد میکنم اینه که همه جمعه خودشون بیان آستین بالا بزنن یه مقدار نماز جمعه ها رو جذاب تر برگزار کنن ببینید مثلا چه میدونم حالا که مثلا زومبا رو تعطیل کردن بین, بین دو خطبه آقا چی میشه اگه یه زومبای اسلامی کار کنن نمازگزارا بدنشون نرم و آماده شی خود وسط واسه خطبه دوم ها بین دو خطبه دیگه اسلامی ها با رعایتشون اونا یه نوحه شاد هم میتونن بذارن دوره هم مردم برای تکونی به خودشون بدن یا گاهی حتی امام امام جمعه اون وسط خطبه ها مثلا میتوان یه جوکی اس چیزی اینجوری مثلا بخونن مثلا برن تو تلگرامشون از تو کانال مثلا چند تا جوکی بخونن این خب یه ذره فضا رو چیز میکنه تلتیف میکنه یا تقلید صدا کنن یا چه میدونم پریدن از حلقه آتش همه اینا پیشنهاد میشه خیلی کار میشه که میشه اصلا بعد از تموم شدن نماز غره کشی کنن به قید قرعه هر هفته به چند تا از نمازگزارا ماشینی آپارتمانی چیزی به عنوان اه، اه، چیز بدن دیگه هدیه و اینها بدن این هم آقا خزینه های میلیاردی میکنه این سازمان تبلیغات اسلامی خب یه بخشی هم اختصاص بده به این جوایز هفتگی هر جمعه یه دونه جایزه چند تا جایزه بده ها صد برابر بیلبورد و تبلیغات تلویزیونی و چاپ بروشور رو اینا جواب میده یا اصلا دیگه ساده ترین کار آقا ساده ترین کار این قضا نزری بدن تو نماز جمعه یعنی اگه همچی کاری بکنن مردم از 8 صبح صف بکشن جلوی در برای نماز جمعه ببین کی گفتم به خدا این نماز جمعه رو بدن دست من من میدونم چی کار کنم دیگه بدن آقا سر یه سال کاری میکنم مردم برای شرکت توی نمازجمه زیر دست و پای همدیگه بمونن لهشان سر کله هم دیگه رو بشکنن اصلا باور کن جوری میشه همین امام جمعه بجنوب که اومده این حرفا رو زده بیاد با چوب مردم رو از نمازجا بیرون کنه بگی زیاده دیگه جا نداریم بریم بیرون به جان خودم شوخی نمیکنم بدن دست من من خودم خودشون وایسن تماشا کنن بفهمن حضور پرشوره. اقشار مختلف در مراسم عبادی سیاسی یعنی چی؟ یعنی ببین باور کن یه جوری میشه ملت جای پارک برن نماز جومه اصلا بچه های جای تاب بازی اسباب بازی اینا بگم ما رو ببری نماز جومه حالا ببین که گفتم. تو پارک ما تاب بازی چه خوبه تو خونه اسباب بازی خیلی خوبه ندونه از بازی, بازی. می خوام برم تا بازی بلونه از بازی, باز بازی. و برم پایین بیام به سیم سر بزنم <متصفح> <متصفح> <متصفح> <متصفح> خوشید خانوم ها <هالشوم> چه خوبه لشوم اون چه خوبه کجا می‌نی مگه یک ورون صد برم تا بازی و هم با همه برابطش های گل ایسکاب شنبه خیلی خلاصه ده. میخوام بگم همه مقصر رو پراید ندونیم مقصر اصلی فرهنگ راهنمایی رانندگی و بله. فرهنگ رانندگی خود ما ایرانی هست بله. وقتی که با خشونت وقتی که بدون رعایت قوانین بدون رعایت سرعت رانندگی میشه شما هر ماشینی که دست مردم بدید برحال این مشکل پیش خواهد اومد و این همه کشته و زخمی و علیل و مجروح به جامعه تحمیل میشه. اون تا مشکلی که هست خلط دو تا مابسه این که خود سازای داخلی و در حقیقت سیستم‌های مافیایی که پشت اینها هست خب اون یک طرف عدم اجازه به ورود خودروهایی که استاندارد در جهان یه طرف و سوجویی که دولت مردم میکنن و اجبشونو پر میکنن و خودروی کم رو با قیمت چند برابر میدن دست مردم اونها یه طرف ولی خب اون مسئله شدت تصادفات و کشداری که هست فقط مسلش خودرو نیست مسئلهش مولتی فکتوریال شاین هستم از اینجین بله ممنونم شاین جان مولتی فکتوریال خیلی خارجی و خیلی دقیق و اینها روی همه چی توضیح دادن ممنونم ازت داد به خاطر تماس ولی بله فرنگ رانندگی که داغونه ولی دیگه با همین فرنگ داغون اگه پشت ماشین درست حسابی نشسته باشی و مثلا با 60 سرعت بری تو دیوار تای تاش ماشین داغون میشه خود چیزی نمیشه ولی اگه پشت پراید باشی دیگه یه سره راهی اون دنیا میشه دیگه فرقش اینه برحال مرسی از تماسیت دوستان همونطور که خیلیاتون میدونین کماکان نگرانی ها در مورد وضعیت سلامتی محسورین اعتراضات انتخاباتی سال 88 ادامه داره و بعد از انتشار مصاحبه عجیب با دخترای میروسین موسعی و زهران رهنورد در این باره این نگرانی ها یه فاز جدیدی شد حالا چرا مصاحبه عجیب بود این مصاحبه روزنامه جمهوری اسلامی انجام داده بود و درست سردبیر این روزنامه سالها پیش تو دهی خود. ا میرحسین بودم و به هر حال روزنامه جمهوری اسلامی خیلی سنتی و کاره و این کار ازش بعید به نظر میمد چون این روزا وضعیت جوریه که تندروترین های اصلاح طلب هم حتی از بردن اسم این محسورین و حتی کلمه حس میترسن چه برسه به مصاحبه با فرزندان محسورین اون وقتی که دخترای موسوی و راهنورد توی مصاحبه به شدت گله کرده بودن از میزان مراقبت‌های پزشکی که از پدر مادرشون تو میشه و گفتن حتی دست وزیر بهداشتن برای مراقبت از اونها بست است از طرف دیگه هم خبر اومد که مهتی کرروبی دوباره بستری شده تو بیمارستان و به طور کلی اوضاع قلبیش خیلی راه نیست حالا از اون جالب این که روز سهشنبه آقای نوبخت سخنگوی دولت اومد آرزوی سلامتی کرد برای محسورین و آرزو کرد که دورت ها برطرف بشه انگاه مثلا دعوای خونوادگیه تازهشون در ادامه گفتن رهبری موضوع هست رو غیر قابل حل نمیدونه. جواب ایشون اینه که بله رهبری قابل حل میدونه اما ایشون شرط قابل حل بودن رو هم اعلام کرده و اون گفتن چیه توبه یعنی چی یعنی موسوی و کربی بیان به پاشون بیافتن که آقا ما رو ببخشه و توبه ما رو بپذیر با این حرفا تا از هست در میان کروبی و هم خب نشون دادن اهل این حرفا نیستن پس بس رقم حرفای خنده‌دار آقای نوبخت بعد گفت که با این وضع ماجرای هست اصلا هم قابل حل نیست مگه اینکه معظم بکشه پایین یعنی سطح مطالبهاتشو بکشه پایین به حال چیزی که به نظر میاد و ثابت میشه اینه که شیخ حسن روحانی و دم و دستگاهش هم هر چهار سالی بار میان یه شعار رفع هستی میدن و رو میگیرن و بعد حد اکثر پیگیریشون اینه که ایشالله کدروت ها برطرف بشه و این حرف ها خستم نباشن واقعا باز یه سناب و غلم مشته دست، ابزار شاعری که در وطن پشت نردست و باز زخمی که میکنه در بدن هی در بدون بی پایان معنی وطن هی من. دو سالی گله کردی از لب بس دخته من لب و دختن و تو نفهمیدی نست سخته من تو نفهمیدی اون چه هنوز نفهمیده منم من نفهمیدم بوی خون وطن میده تنم وطن یعنی افکارت بش محدود قوانین، همینی که هست ماها محروم زمانی، وطن یعنی خیابون و کلی صندوق صدقات برای سلامتی بخوراش خد کن یه سلبا وطن گشت شاد و معمور هیزش یعنی نام آزادی رو ممنوع ببینش یعنی آزادی در بیان تو بحثه از بطن. ولی آزادی بعد بیان تو هفته هم و سن اصلا من هیش نشون بده یه جای بشتانی زن به ظاهر معجبه با هجاب اجبارین زن ممنوع و صدا که خوب نشتش درینه که یه وقت نخونه حاجیم و شهبتش نگیره ک نگاه از عزت پروان برخنگی می ساختین برا حجاب چش به مردان کاش آزادی بود و پاش بهانه میدادین کاش در گذشته به کاش و انا نمیدادین فرد مخالف ظلم و جنون و زلته فرد فریادی از سکوت ملته مللتی که گیر صغوبت عزته دولتی که پیر دروغ و نفرت فرد مخالف ظلم و جنون و ذلته فرد فریادی از سکوت ملته ملتي كجير سقوط الزتي دولتی که پیر دروغ و نفری، و تنگنی یعنی گور کن هرچی که در چند داری یا سکود یا که به چرخ مثل چرخند آری بازیگر بازیگری که شد دماوند خوش دلش که شده به سمت نمایند خوش و همون زنی که نکرد فردار و بی تو سیر یگان زنی همچون زهرای میر میرحسینی میر که شده بود به ای برنده بازوندنشو باخ دست نوچه ای و آخر با کتک به مردم تفهیم شد. سر سبز به بنفش تبدیل شد و از فشار زیاد میره بد پیش شد آری میره بد پیش شد وطنگانی هنر تو فرهنگ سیب زمینی وطنگانی مرگ هنرمند زیر زمینی تو بگو این همه حرام واسه دین مونه تذکی و ریش سه وجب تا به زیر یه مشتی دست و تمامی افکار بود وطن و سی اخبار بود بسن یعنی به تست شاعر از بشتر یعنی خودگار با هر چیز پس به ولی بدون دو سه نفر باشه کل طرف دارم فریادی که تو زده خود در افتگارم. و این خوده هایی سه در دلم این خوده ها بودن که حامد حامد فرد شد من مخالف ظلم و جنون مزلتم من فریادی از سکوت ملتم خدا نگاه کن منی که به قبلتم خدا نظار بشکن قرور ملتم من مخالف ظلم و جنون و ذلتم من فریادی از سکوت ملتم خدا نگاه کن منی که رو به قبلتم خدا نظار بشکن قرور ملت بیستگاه فقط پنجمبه دستان ما اینه که دام میگم حال توی کیبک پارا کی شام بالا دوست داری باشی بخریسم بالا پس دستت بده بره کی بالا سلام سلام سلام منم حال کل زنده عالم یه جانم سلام لم خدت بزن ببرم بالا تا صلب هم بر میگشه واج بویی عجب مودل موی چه دختره چج. البته دارم مدل هشت می کنم که از خانمم با رفتار بود به خاطر اینکه اون منو گذاشته رخت برای پراید هم واسه من معلوم خاله نگذاشت. بله خیلی ممنونم. ramos شما به کار درستی نیست خیلی بخواین مقایسه کنین حالا پراید رو با خانومتون ولی به مشکلات دیگه ای داشته پراید هم مشکلات دیگه ای داره. حالا ممکنه به حال به جاهای دیگه ای با پراید برین و امیدواریم نه به اون سمتا نرین البته ولی خب دیگه حالا گای وقتا اتفاقاتی میفته حوادثی پیش میاد با پراید امیدوارم از همه به دور باشه تا کریم یه دقت کرده باشه یکی از ویژگی‌های نظام مقدس اینه که نیروهایی رو تربیت می‌کنه که به شدت به قول بچه بچه‌ها روشون زیاده مثلا یکی از سرامدان و صاحب سبکشون اسمعمود خودمون بود که از همین راه تونس رئیس جمهور هم بشه هنوزم از همین راه پدر نظام مقدس رو درآورده اما یکی از فرزندان نظام که حیوانکی دیر فهمید بچه‌ها چقدر روش زیاد باشه تا از قافله عقب نمونه جناب سردار دکتر خلوان شهردار قالیباف دردار قبل از این اتمال اندیبتی فعلا هست ایشون هم البته کم نه برده ماشالله از سال 84 همین داره کاندید میشه بعد از محسن رضایی البته تا رئیس جمهور بشه ولی نشد اما با این وجود چون از همون برادران زیاده روی نظام هستند کم که نمیارن الان گوش کنید این رفتن تو برنامه, برنامه برادر پور توی تلویزیون چی گفتن اگر من در انتخابات بودم رقابت خیلی نزدیک بود یا دو مرحلیه میشد انتخابات یا اگر با مبیباختیم فاصله, فاصله کم بود کمتر از مثلا همه نظرسنجا نشون میداد بحث یک درصد یک کنیم درصد اینا بود این فاصله نبود عجب الان بیاید یه نگاهی بندازیم به نتایج سال 92 که ایشون کنار کشونده نشد و رفت و رعی رفت ببینیم چقدر رعی ورده رای تو انتخابات ریاست جمهوری سال 92 6 میلیون و 70 هزار تا بوده. رای روحانی 18 میلیون و 600 تا یعنی 51 درصد به حدود 17 درصد. امسال که جنای اصولگرا و تشکیلات انتخاباتیشون یعنی جنبنا همه ها رو تو یک کاسه کردن، همین قالیباف جان رو وادار کردن بکشه کنار و رقیب قابل محاسبه دیگه اصولگرایی هم وجود نداشت برای رئیسی کل رأی‌های رئیسی شد 16 میلیون، رأی روحانی شد 24 میلیون. بعد باز هم شما فقط باید یک غالیباف باشی که بعد از اینکه برای سومین بار به شکل غیر مستقیم کل جناهد با تمام قواه در یک انتخابات شکست خورده بیایی این حرفا رو بزنی که حتی یامینپور هم چشش از حدقه بزنه بیرون یعنی وضعیت آقای غالیباف با این شکست های انتخاباتیش رو اگه دونالد ترامپ میخواست توصیف کنه اینجوری بود complete and total loser. یعنی بازنده تمام معنا ولی خب یعنی دیگه اینا همونطور که گفتیم های زیاد روی نظام هستن هیچ جام نمیرن همونجا نشستن. مهم به همین مناسبت خب آهنگی هست جدیداً یک استاد جدید و تأسیسی به نام عهد آقاسی اینو خوندن هیچ رقمی هم به اون آقاسی خودمون ندارن. تقدیمش می‌کنیم به همه این عزیزان نظام علل خصوص برادر قالیباف که شاید یه روزی به خاطر اصرار ایشون هم که شده برن میگن بچه پر رو نمیدونم برو برو بچه یه چی تو مایه ها میخونم سر و از این چنان زیر پای چشمای باز برو بچه برو برو بچه برو برو بچه برو کم بیا چشم ابرو برو بچه برو برو بچه برو برو بچه برو کم بیا چشم و ابرو برو بچه برو هم خوش هم ہم مچه نابولو میشیم به پاش میزومم برس به دادم خدا برس به دادم خدا میدونم میمیرم به روش و من آزو آدش دلم میگه بی با با دخترشی دون با داد دخترشی دون با داد برو بچه برو برو بچه برو تنبیهش مو ابرو برو بچه برو نهم ماه اوت سال روز تولد ویتنی الیزابت هیوستن تهیه کننده بازیگر مدل و خاننده سرشناس امریکایی که به دلیل تعداد جوایز زیادی که در طول زندگی هنریش دریافت کرده رکوردار گینس هم هست ویدنی هیوستن رو خیلی از ما به خاطر کار I Will Always Love You که برای فیلم Bodyguard خوند به یاد داریم این هنرمند سال 2011 توی سن 48 سالگی از دنیا رفت با هم یه کار بشنویم از ویدنی هیوستن به اسم It's Not Right But It's Okay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 سلام سلام چطوری خوبی؟ قربونت خوش اومدی. قربانی شما. خوب چی داری برامون امروز بریم سراغ سینمای داخل اول؟ سینمای داخل ایران. سینمای داخل این هفته برخلاف هفته پیش که خب خیلی خبرها بیشتر بود و شلوغ شده بود سر فیلم پاتوق کفش من نکنه هفته به نسبت آرومی پشت سر گذاشت. چی شد این فیلم برای آ... فیلم چه اتفاقی افتاد؟ آره اتفاق قابل توجهی این بود که برخلاف اون شلوقی ها و انتقاد ها و اعتراض هایی که خبرگذری های فارس و تسنیم و اینا را انداخته بودن درباره این فیلم خیلی اکران بی سر و صدایی داره پشت سر میگذاره توی این یک هفته اول یعنی خوب نفروخته نه اصلا هم خوب نفروخته با توجه با حالا اون مسائلی که براش پیش اومد و درجه بندی سنی گذاشتن و مصبت هیچ مصبت داشت کردن هیچ د... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولی ظاهرا خیلی تماشاگران نپسندیدن اون نوع نگاه و اون نوع پرداختی که تو این نوع فیلم فیلماس به قول معروف بهش میگن کمدی سطحی حالا اسمشو گذاشتن ظاهرا تماشاگران نمیپسندن و همش نزدیک به 132 میلیون تومان فروش کرده تو این مدت که خیلی رقم پایینی محسوب میشه اما کلاًم این هفته از ای کمدی سطحی که میگه یعنی مثلا اکسیدان هم همچین چیزی داشته یا نه اکسیدان متفاوض بوده به نوعی مثلا تو پرداخت به اون نگاهی که کارگردان و سازنده فیلم داره در پرداخت داستانش و پیشبرد قصهش به نوعی یه مقدار وسواس بیشتری توش دیده میشه مثلا در اکسیدان. مقایسه با اکسیدان اگه بخوایم بگیم درسته. و این مدل کاری که بهش میگن کمدی ساعتی خب روند برد قصه خیلی اتفاقات قابل پیشبینی میفته سطح پرداخت قصه و اینا پایین هست در مجبور تماشگر این روز میفهمه فرق فیلمی که با یک مقدار جزیات و پرداخت بیشتری ساخته شده با فیلمی که تا حدودی سردستی ساخته شده دلسته. و با این میزانم که حالا فیلم ما در دسترس و دیده میشه تماشگر امروز در واقع خیلی سخت شده بخوایی براش در واقع محصول تولید کنی محصولی که براش جذاب باشه بخواد بیاد به سینما که <تصفيق> اونه که بعد انتخاب کنه مثلا بیننده و بیاد اه... به سینما بیاد همین اتفاق رو... تا حدودی حالا با مقیاس یه مقدار بیشتری برای فیلم ساعت پنج عصر رفتده. برای فیلم, فیلم که... مهران مدیری که خیلی فور افتتایی خوبی داشت پیش بینی میشد که احتمالاً بتونه جزء فیلم های صدر نشین قرار بگیره اما تو این هفته فروشش خیلی کم شده اونم تازه رسیده به مرز سه ملیار تومن تو دو هفته که،, که حالا مشخص نیست اگه بخواد همین روند پیش بره بتونه برسه به اون جایگاه بالای جدول که الان مثلا فیلم نهنگ انبر دو گشت دو دارن رقابت شدیدی دارن که فیلم نهانگرمبر دو همچنان نتونسته فیلم رو گشته دو رو بگیره صد تو من کم داره راجب فیلم چی میگن؟ منتقدین یا خیلی گفتی میشه که, که, که نوع کمدی تلخی که فیلم داره برخلاف اینکه که تمشگر منتظره که خیلی کمدی خنددار رو بدون حالا نگاه های سخت اجتماعی توش بخواد ببینه اینجا چون مهران مدیریه شامل همچنین شاید شاید, شاید. و نشون میده که مهران مدیری در مقام کارگردان سینما خیلی نگاه تلختری داره نسبت به شخصیتی که تو آثار تلویزیونیش داره تولید میکنه و اینجا یک مقدار نگاهش ممکنه خیلی متفاوت تر باشه از اون چیزی که در محصولات تلویزیونیش میدیدیم شخصیت فیلم در واقع مجموعه اتفاقایی که براش میفته از زاویه برخورد های اجتماعی که داره میکنه باهاش میشه خیلی نگاه های تلخی در فیلم دیده میشه و همین ظاهراً گفته میشه که از دلایل کاهش تماشا کرد بوده میتونه باشه نگاه منتقدان هم دو جنبه اکثرری ها خب میگن که در مجموعه از محصولات تلویزیونی با اثر بهتری رو رو هستیم اما برخی دیگر میگن که اون نوعآوری خاصی دیده نمیشه یعنی باز هم ما یک شخصیتی داریم که تنها فردی است که در واقع با منطق و عمل کرده قابل پیش بینی داره و تمام افرادی که باهاش مواجه میشه تو این اجتماع از اون صبح تا شب که در داستان میگذره همه اونا آدمای عجیب غریبی اند و این تا حدودی مثلا تو محصولات و تولیدات دیگر آقای مدیری دیده میشد بسیار خوب از سینمای خارج چه خبر دانکرک چه خبر همچنان خوب داره میفروشه همچنان خوب بد نیستش البته خوب اثر بلاکباستری نیست مثل مثلا عبرقهرمانی های تابستونی مم. که اسپایدرمن یا فیلمای دیگری که تو این مدت میبینیم اما در نوع خودش با من یک محصول جدی سینمایی که دایه حضور در فصل جواز سینمایی داره عمل کرده بدی نداشته از مرز 100 میلیون دلار به سرعت در اکران آمریکا گذاشته اتفاق اصلی توزیع سینمای جهان البته مرگ دو چهره مهم بود در هفته گذشته سام چپارد نمایشنامه‌نویس شناخته شده و که بازیگر بود تجربه فیلم دوبه نویس هم داشت و خانم ژان مورو بازیگر خیلی شناخته شده سینمای فرانسه سینمای متفاوت دهه شصت و هفتاد که جریان موج نو سینمای فرانسه که از شمائل اصلیش خانم ژان مورو بود که بعدتر به نوعی ارتباطی هم با جنبش‌های اجتماعی دهه‌های شصت و 70 اروپا داشت و خانم مورو رو اصلا کاملا با این فیلم ها شناخته می شد که اون جنبش دانشجوی 1968 فرانسه باستابش تو فیلم هایی که خانم مورو بازی می کرد خیلی نمایان و آشکار بودش که در گذشته این دو تا چهره به فاصله دو روز از هم خیلی اتفاقای قابل توجهی بود که همه خبرسازی های دنیای سینما در واقع فرهنگ تصویری موکول به این دو چهره بود که از بین رفتن تووزی سرگرمی هم یک انیمیشن اکران شده به نام فیلم ایموجی که این دفعه سرگرمی سازان هالیوود رفتن سراغ این شکلک های اینترنتی اسم فیلم ایموجیه فیلم ایموجی ایموجی مووی هستش که برای اونها قصه ساختن که اصلا به همین, همین شکلک های ایموجی ایمو ایموجی که... آره خنده گریه شوخی عصبانیت اینا <تصفح> که اونها اینا اینا شخصیت ها کاراکترهای فیلمن تو یک دنیایی میگذره داستان قصه که هر کدوم اونا احزار میشن به دنیا واقعیتی وقتی که استفاده میشه تو این های اینترنتی در نوع خودش فیلم سرگرم کننده ایست اما تا اون میزان فروشی که پیشتر با انیمشنای قبلی مثلا استودیو پیکسار دیده میشد برخورد نشد اما یک اثر است برای اکران تابستونی انتهای اکران تابستونی هم هستیم که ما در پایان فصل آگوست در واقع اکران تابستونی با باز شدن مدرس در کشور غربی میگن که تموم میشه اونم در کنار دانکرک الان دارن رقابت اصلی رو در اکران سینمای جهان دارن بسیار خوب ممنونم ازت خواهش میکنم بابک غفوری آذر میتونید در توییتر فالو کنید با شناسی بابک آزر موسیقی The legends and the myths Achilles and his gold Achilles and his gifts and spider mans control and batman with his fist and clearly I don't see myself upon that list But she said where'd you wanna go how much you wanna risk I'm not looking for somebody with some superhuman gifts some superhero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 ششم ماه اوت تولد جری هالیول ترانه سرا، خواننده، طراح لباس و نویسنده انگلیسی که دهه 90 با گروه معروف پاپ اسپایس گرلز به شهرت رسید و یک چیزی نزدیک به 85 میلیون نسخه از کارهایی که در کنار این گروه منتشر کردند تو سراسر سر دنیا فروخته شد و این مسئله اونها رو تبدیل به پرفروشترین گروه پاپی کرد که تموم اعضای اون دختر بودن سال 1999 هالیول از این گروه جدا شد و مسیر مستقل خودش رو توی دنیای موسیقی ادامه داد میتونیم کار لوکتمی رو بشنویم از کارهای مستقل جری هالیول Tight-fitting What you see Ain't what you are getting Big make Little break-up She wants it He's got it Cold-blooded الو مفعسیل عزیزان و همه پنج شنبه ای بله آقا به ثان ساعه مدیر عامل سایپا شده سوژه خندهی همه ما چون فهمودن که پراد ماشین به قشر فقیر جامعه حالا ببین ما چی هستیم که همین پراید هم نداریم پس اونایی که همین پرایدم ندارن جزه چه قش محسوب میشن یه ف. و این واقعا برای من دردناکه که یک مسئول که وظیفه اصلیش حفظ جان و امنیت مردم ایرانه به خودش اجازه بده و بیاد با پرویه تمام بگه که بله چون یک قش جامعه ضعیف هستن و پول ندارن بتونن ماشین لکسوس بخن یا لامورگینی پس محکوم لکسوز. هستن به خیدن این ارابه مرگ و خب محکوم هستن به فنا متاسفم از اینکه توی همچین جامعه زندگی میکنم میسی قربونت تو صوفی هستم از شیراز سوفی جان خیلی متشکرم خیلی ممنون شما تو چالشی گویانندگی ما هم شرکت کردید صداتون به این شیکی و مثل لکسوس میمونه خیلی ممنونم ناراحت نباش آدم پول نداشته باشه سوفی جان پول لازم باشه پراید بخره پیاده بریم منور هم آسایشش بیشتر هم امنیتش مدیر عامل سایپا هم خودش گفته اصلا شما خودتون ناراحت نکن. خیلی ممنونم مرس ایشالا لکسوس بخری من آرزو می کنم شما لکسوس بخرید این هفته یکی ای از اتفاقات اجواب کره زمین خانم آقای اون این بود که آقای نماینده بیجار در مجلس شورای اسلامی این آقای نماینده بیجار به همراه ایال محترمه و راننده شون داشتن تشریف می‌بردن فرودگاه تا با وزیر راه برن یک سفر کاری مأمور پلیس انتظامات فرودگاه ظاهراً به دلیل اینکه ایشون هیچ که امراش نبوده نذاشته با ماشین بره تو خلاصه پیاده میشه خودش میره یه سرگوشی آب میده، حاضریشون میزنه تو سالن برمیگرده. ظاهرا وقتی برمیگرده میبینه آقای معمور پلیس داره با عیال ایشون جر و بحث یا به قول خودشون توهین میکنه. اینه که ماجرا ناموسی میشه، دیگه خون جله چش نماینده عزیز میگیر میگیره و میره مأموره یه جوری کتک میزنه، دماغش میشکنه. اینجاست که باید گفت این است اقتدار یک نماینده مجلس در جمهوری اسلامی. حالا اگه نمایندهامون در قانونگزاری و خدمت به شهروندان حالا کاریت ازشون برنمیاد، اما و در قانون و کتک زدن معمورا میتونن سنگ تموم بذارن که پس میذارن نکته جالبتر این بود که بعد از این ماجران نیروی انتظامی هم یه داد توضیح داد که معمورین این نیرو بعد از حادثه تروریستی فرودگاه سخت گیرتر شدن چی گفت نیروی انتظامی؟ یورو انتظامی اطلاعیه داد توضیح داد مامورین این نیرو بعد از حادثه تروریستی فرودگاه سختی سختگیر ترجا یه دقیقه صبر کن حادثه تروریستی کجای فرودگاه حادثه تروریستی نه والله ما دو تا عمل مرگبار داشتیم تو چند ماه گذشته یکیش تو مجلس بود یکیشم تو قبر امام دیگه حادثه تروریستی فرودگاه دیگه چه صیغه اینجا بود که وقتی ایشون اینو گفت یه دفعه یادمون اومد اوه یه، یه تیراندازی تو فرودگاه شده بود چند وقت پیش که اول گفتن مانور بوده بعدم گفتن یه نفر از مامورای پلیس کشته شدن توی اون مانوور ما, ما هم کلی سرسده کردیم که اولا خود چه مانووری بوده که هیچ ازش خبر نداشته بعد که میگه کشته هم داده دازه مانووره خب پس خبری بوده اون موقع که الان از دهن نیروی انتظامی در رفته میگه حادثه تروریستی فرودگاه عجب اینجوری اطلاع میدین به مردم شما؟ سریب گمان زنی هم هست که حادثه تروریستی نبوده مثلا خود مامورای سپاه تو فرودگاه با هم دعواشون شده نمیدونم اصلی کشیدن واسه هم. حالا خلاص عجب بللبش یه دیگه فقط خوشحالیم که یکی از ویژگی های آدم دروغگو اینه که کم حافظه است خودش میاد خودشو لو میده و گرنه که کارمون زار بود والا به خدا. از رو بنو کوش میکنم همه ی مشکلات ذاتی همه ی ما یا فراموش میکنم نه از تو پاپوش میکنم از صدای جان بچه‌ها کوچک بود فرق است موش شده روشنوئی گوم ما بس مونسر و من تر بر تانی که من نشاست زخم زبان تو اعصاب من است. Asi, har no ارسان نترسیم بر بامشد تا بامناده سهر بیا با هم بخونیم هجم جا نمونیم بیا با هم بمونیم تا وقتی جبونیم کار ما ساس و بلنگاری استمراری استمراری از پانزده مرداد تا بیست و مرداد توی مجموعه فرهنگی هنری سعداباد کنسرت نمایشی روی صحنه میره که کاری از همایون شجریان و سهراب پورنازری و بر اساس سه داستان از های شاهنامه ساخته شده زال رودابه رستم و اسفندیار و رستم و سهراب کارگردان این اثر علی اصخر دشتی و سهر دولتشاهی بهرام رادان مهدی پاکدل، بانیبال شمون، حسین صوفیان و صابر ابر هم بازیگران این کار هستند. به همین بهانه میتونیم یکی از کارهای مشترک همایون شجریان و صحراب پورناظری رو با هم بشنویم به اسم خداوندان اسرار. خداوند، خداوندان موسیقی همونطور همطوری که سعید حالا تو توضیح داد راجع به این کنسرت جریان شجریان پر نازری در کاخ سعداباد کنسرت سنتی هست این هفته قرار بود اتفاقا شهرام نازری هم یه کنسرتی برگزار کنه توی قوچان که خب این برای شهری مثل قوچان اتفاق خیلی مهم و بزرگی بود ظاهرن موجوزهای لازم هم برای این کنسرت از وزارت ارشاد گرفته شده بود هیچ مشکلی هم نبوده مون تا وقتی موعد کنسرت میرسه مردم به محل برگزاری کنسرت میرن یا دفعه مواجه میشن با درای پلم شده و خلاصه مشخص میشه دادستانی غوچان قوچان با برگزاری کنسرت مخالفت کرده اومده محل برگزاری رو پلم کرده رفته فکر کن شهرام ناظری که تو بزرگترین شهرهای دنیا کنسرت گذاشته یکی از مفاخر هنری کشورمونه خاصه تو کشور خودش توی شهر قوچان کنسرت بذاره رفته مجوزش رو هم گرفته اون وقت دادستانی میاد محل برگزاری کنسرت رو می‌کنه میکنه این خدا بگم چیکار کنه این علم الهدا رو که این رسم کنسرت تعطیل کردن و کنسرت بهم به زدنش به اوزانای همجوارش هم سرایت کرده هیچی دیگه ظاهراً آقای شهرام ناظری بعد از چند ساعت معطلی در محل برگزاری کنسرت دیگر شدت خستگی و ناراحتی حالشون ظاهرا میگن بعد میشه روی بیمارستان میشن مردمی هم که بلیت کنسرت به دست پشت درامونده بودن توسط برداری زحمتکش نیروی انتظامی متفرق میشن برم خونه هاشون آقا واقعا آدم نمیدونه چی بگی حالا باز اگه طرف چه میدونم خواننده راک بود پاپ بود میگفتیم خب آقا که میترسیدن اسلام به خطر بیفته کنسرت رو باز کردند ولی آخه دیگه شهرام نازری موسیقی سنتی اصیل ایرانی من نمیدونم چرا باید تعطیل بشه خلاصه این آشی که داتستانی قوچان برای کنسرت نازری پخته بود انقدر شور بود صدای همه در اومد داتستانی قوچان هم مجبور شد بیانیه بده اعلام کنه که علت لغو کنسرت این بوده که محل برگزاری کنسرت ایمن نبوده تو توییتر هم این مساله واکنشای زیادی به دنبال داشت کاربری به نام آق بهمن با اشاره به توجیه داتستانی قوچان برای لغو کنسرت نازری توییت کرده بود برای کنسرت کلا خراسان ام نیست خراسان شمالی و جنوبی و رئیسی هم نداره یا محمدعلی ابطهی خیلی شاکی از این وضعیت به کمتر از استعفای وزیر راضی نبود نوشته بود وزیر ارشاد یا وزیر کشور نباید برای جلوگیری از کنسرت شهرام نازری در قوچان استفاده دهند نازری مهمترین حنجره سنتی خان ایران است که هنوز میخواند البته واکنشا به این تعطیلی کنسرت محدود به فاز مجازی نشد دو, دو, دو 500 نفر از اهالی موسیقی هم نامه سرگوشداری به وزارت ارشاد نوشتن خواسن جلوی این اتفاقات گرفته بشه و به اون هنرمندایی هم که اینجوری متضرر میشن قرامت پرداخت بشه علی متحری نماینده مجلس هم در این مورد ساکت نموند گفت که شهرام نازری و هم وزارت ارشاد باید از داد ستان قوچان به خاطر لغو این کنسرت شکایت کنن و حق شکایت بروشون محفوظه البته خب اینجا چون متشاکی دادستانه که خب کارش که میدونین اینه که داد مردم رو از زورگوها به ستانه آدم نمیدونه که آقای نازری باید دادش رو از کی به ستانه یعنی از داد ستان پیش کی ببره دادش رو از داد ستان واقعا هم باید پیش کی ببره شاید اینجور مواقع بهترین کار اینه که استاد دادشون رو آواز کنن و سازشون رو بردارن و بخونن هی hey تو و هی hey بی کی از خبرای بار این هفته درگذشت محمود جهان خواننده خونگرم و پیشکسوت جنوبی در ماه شهر بود. جهان برای برگزاری کنسرت به شهر ماهشهر رفته بود که متاسفانه عجل مهلتش نداد و قبل از اینکه روی صحنه بره فوت کرد. شاید خیلی از ماها دوره تاریک و سیاه جنگ ایران و عراق رو با قطعه یا الله یا خدای محمود جهان به یاد بیاریم. قطعه ای که اون روزا خیلی از صدا پخش میشد. از محمود جهان به غیر از کارای موسیقیش، فرزندش، امید جهان هم به یادگار مونده که داره با پشتکار زیادی در زمینه موسیقی جنوب فعالیت میکنه. یادشو با شنیدن یکی از کارهاش گرامی میده خداوندا چه کم در مدت ماه از خدا میگیرم که خالی نمونه با دست خان عزیز کا پنج شنبه میشنوید سلام اصغتون بخیر فکر می کنم که ایران خودرو و سایپا خیلی اعتماد به نفسشون بالاست به خاطر اینکه ماشینی رو که تو ایران می فروشند 3 میلیون 40 میلیون خارج از کشور با کیفیت بهتر با قیمت شاید یک سوم این قیمت به گمرک ها می فروشن و با توقع دارن که مردم ایران ازش استفاده کنن نه به نظر من پراید خودروی اقشار کم درآمد نیست تازه سر ناچاری استفاده میشه اگه 4 تا رقیب برای اینها وارد بازار بشه که حالا به هر دلیلی این کارو نمی کنن شرکت های خود روسازی خودشون متوجه میشن که مردم ماشین بهتر رو ترجیح میدن ولی متاسفانه چند این بار اصلاح خورده که کیفیت رو بالا ببرن هموزان میبینیم همون لگنی که بوده هست. آ گفتی آی گفتی اصلش هم همینه وقتی رقابتی نباشه همینه دیگه دیگهلا لگن چه چار چارخ خودرو خود و مردم میفروشن دیگه ملت هم که انتخاب دیگه ای ندارن میخرن سوار میشن اینجوری پراید میشه خودروی مطلوب قشار کم درآمد به قول اوشون. مرسی از تماستون. ساعت شش و 17 دقیقه است از رادیو فردا به صورت زنده با شما هستیم از ایستگاه پنجشنبه تا ساعت 7 چند وقت پیش اعلام شد دو تا از مدده های معروف و نور چشم رهبری یعنی رضا هلالی و روح بهمنی به خاطر افشای اسرار نظام و رابطه با موساد توسط اطلاعات سپا بازداشت شدند فکر کن یعنی مؤذنله مار تو هستینش برورش میداده حالا ماجرا رو بگم ماجرا چی بوده ماجرا این بوده که آقای هلالی ظاهرند با یه خانوم به ظاهر محترم که از وابستگان سفارت فرانسه بوده به طریق آشنا میشه و کلا رل میزنن و اینا تا اینجاش مشکلی نبوده بالاخره مدهان عزیز هم به حال هم دل و هم یک سری مسائل دیگه دارن که من نمیخوام بیشتر از این باز کنم مسئله رو مشکل از اونجا شروع میشه که بعد از مدتی این خانومه میاد با آقای هلالی میگه که یک دوستی داره که این دوستش عاشق رواله بهمنی یعنی اون یکی مداد خاندان اهل بیت اسمت و طهارت و ایناست و یه جورای خلاصه میگه دوست داری با دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه و دوست بشی و اینا هلالی هم میره ماجرا رو به بهمنی میگه بهمنی هم خب با اینکه زن بچه داشته ولی خب رو هوا پیشنهاد رو میزنه و با این خانم وارد وارد رابطه و اینا میشه و این خانم هم که در اصل رابط سازمان موساد بوده بعد از یه مدت شروع میکنه مخ بهمنی رو زدن و زیر زبانش کشیدن که نمیدونم بیت رهبری چه جوریه و فرمانده‌های سپاه قد کی هستن و کجان و سپاه انصار المهدی کارش چیه و اینا این مداح جوگیرم هم برای که کم نیاره نشون بده و اینه و همه نصرارو نظام رو می‌دونم و اینا آدم مهم میام و اینا هرچی می‌دونه رو برای خانمه میرزه رو دایره هیچی دیگه بعد از یه مدتی هم طعقش در میاد که کلاً خانم جاسوس اسرائیل بوده، کلی اطلاعات طبقه بندی شده رو اینجوری منتقل میکنه به موساد. البته دستگیری این دوتا تا مداد اون اوایل تکذیب میشد ولی خب دو روز پیش، دو سه روز پیش ظاهراً دیگه دیدن لاپوشونی فایده نداره، آقای ایجی رسمان اعلام کرد که بله چون این چیزی بوده و این دونوگل باقی باغ اسمت و طهارت دستگیر شدن در حال بازجویی هستن. دیگه همینه دیگه وقتی نوع خون میشه نور چشم و محرم اصرار نظام و خ در آش از بیت رهبری تا حفاظت اطلاعات سپا؟ از این چیزام پیش میاد بله موسادم برالدون دونسته به حال کجای نظام چیجوری بذاره که بتون از جیک پوک نظام سر در بیاره ای دختر خبر چی؟ تاات تا رو دیدم اومدی یا با تو کوچ برای یک حس قشنگ پراید خان سلام سلام آید پشت باید. پرایده نوشته بود من حق پراید وسیله است نمیدونم یعنی چی خب حالا اونو... اونو که نوشته بود ما کاری نداریم در مورد خاطرم باجی نمیشه گفت ما پراید خاطراتی داریم که ذکرش ظرفیت از از و حجم برنامه تو خارجه جاری هم میگیرم خدمتون دو نفره توضیح میدم مخلصم آمده از اسمه ها ما شاله بچه ها چه کارهایی رو میکنن و شنیدیم دیمه هم واقعا یه کارهایی میکردن مثلا 31 نفر مثلا میرفتن یه دفعه توی ماشین جامی شدن پراید نمیشه دو نفر هم خیلی سخته من نمیدونم اینا ها چرا خاطرات دو نفره دارن از پراید خیلی عجیبه ولی تشکر میکنم که به حال عنوانش کردیم به یک شکلی چهارم ماه اوت سال روز تولد لویز آرمسترانگ نوازنده ترومپت آهنگساز و خواننده جاز امریکایی که یکی از مهمترین و تأثیر هنرمندای هنرمنده این سبک یعنی همون سبک جاز، توی قرن 20 به حساب میاد لویز آرمسترانگ سال 1971 توی سن 69 سالگی از دنیا رفت یکی از کارای آرمسترانگ رو با هم بشنویم به اسم What a Wonderful World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 Clouds of white, the bright, blessed days. The dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces. People going by I see friends shaking hands Saying How do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They'll run much more Than I'll ever know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 عشق منوفی از که تو ایمان ات ضعیفه و بله. نمیدونی بله. راه رسیدن به خدا چیه من واسط بله. میگم بفهم. چند تا راه وجود داره که اینا قبلا امتحان شده بسیار و ثابت شده است بله. یک پراید 131 بله. دو. پراید 132 دو پراید 133 و, و, و, و این که یه راه مستقیم وجود داره که خدا رو تو مستقیم بغل میکنی خب اون پراید وانته حادی آخ... هستم از آخ... کلنه آلمان ببخشی دذارم سرما خوردم بوست آخه خوبشی اینشالله خوبشی خیلی ممنونم از تماستون پراید وانت رو من متاسفانه افتخار رو نداشتم از نزدیک ببینمشون ولی بقیه ارادت داریم خدمتشون امیدوارم که خوب باشن هر جا هستن کسی رو به درک واصل نکنن دیگه به سمت خدا و اینا نرن تشکر از تماس شما اما دوستان عزیز این هفته سردار ساجدی نیا رئیس پلیس تهران اعلام کرد که شغلی به اسم پارکبان وجود نداره و هرکی هم به عنوان پارکبان از مردم پول میگیره کارش غیر قانونیه البته این دووای بین شهرداری و راهنمای رانندگی سر قضیه پارکپنا سر دراز داره و ذارا یه قراردادی بین این دوتا سازمان یه زمانی بسته شده بود که خب الان بیشتر از یک سال این قرارداد مدتش تموم شده و به خاطر اختلافاتی هم که بین این دوتا سازمان پیدا شده دیگه تمدید نشده. ولی خب چیزی که در عمل اتفاق افتاده این بوده که این چند هزار نفری که توی سطح شهر مشغول فعالیت بودن، از اونجا که پارکبانی تنها محل درآمدشون بوده، حاضر به ترک محل خدمتشون نشودن و خیلی همشه آتیش به اختیار و جوش دارن، همچنان در ازای جای پارک از مردم پول میگیرن. مسئولین هم ظاهرا زورشون به این چند هزار نفر نمیرسه به مردم گفتن شما به این آدما پول ندین. بعد پولی که ندین اینا خودشون خوش, خوش میشن میافتن. یعنی من نمیدونم چه، یعنی کلا مردم خودشون دلگیر بشن با پارکبانا؟ یه کاربری به نام در واکنش به مسئله پارکبانا توی توییتر توییت کرده بود درباره پارک بان ها باید دقه آن نهادی را گرفت که این شغل را خلق کرده و بعد به راحتی آن را غیرقانونی میخواند و با زندگی هزاران خانواده بازی می کند. بالاخره مورد دیگه نمیشه که یه شبه چند هزار نفر بیکار کرد و گفت کارشون غیر قانونی کل این مسئله پارک ها توی فضای مجازی خیلی مترتوجوع قرار گرفته بود کاربر دیگه ای به اسم دابود پنهانی در اعتراض به شیوه برخورد مسئولین با مسئله پارکبان نوشته بود. پارکبان غیرقانونی رو مردم باید جمع کنن، جدال رو میندازين تو زمین شهروندان، شورای شهر و پلیس و شهرداری چه کار اندین وسط؟ و کاربر دیگه‌ای به نام امیرالی صفا هم توییت کرده بود پارکبان غیرقانونیه ولی هست، مؤسسات مالی مجوز ندارن ولی بازن رستوران نباید مالیات بر ارزش افزوده بگیره ولی میگیره، دوره هم خوشیم کلا. خلاصه که فعلا همینه که هست که مامورینه پارکبانی با لباس فرم و برگه های قبل توی خیابنا هستن و کارشون هم خب غیرقانونیه ولی خب این هم مثل هزار تا کار غیرقانونی دیگه که بخشی از فرهنگ و زندگی ما شده بخوایم نخوایم هست و باید باش کنار بیایم همینه که هست از <تصفيق> کاری غری میدی، از سودا سمری می میدونم آخرشم شب می میونه بوم دلگیری نمیذاره تسیل رودل تو سن اینکه من واپسم تو بری میترسم من واسه چشمات دل تنگم پر میترسم بعد چه دنگاری حال من نیستسم من واسه چشمات دل تنگم پر میترسم بعد چه دنگاری le manni saba tadrid enta I'm اد کاری دستم میدی دی، دو دستم میری، می میدونم آخرش همی، اونه بام دل دیری. نویز آر تهی، رودل تو آزم، این که من وا بزم، تو بری می ترسم. من واسه چشمات دل تنگم، پر می ترسم، با چودنگاری. حال من نیستم. من وسط چشمات دل تنگم، پر می ترسم، با چودنگاری. اول خب بریم سراغ ایستگاه تکنولوژی و مهدی احمدی سلام سلام فرشید سلام تو سلام بفرمایید اسکی پنج شنبه خوش اومدین این هفته مهدی خیلی اه... یک سری خبر من میدیدم خیلی داغ بود سر این قضیه اینترنت نامحدود و اینکه نمیدونم دا... خیلی بحثش داغ بود و یک سری اعداد و ارقامی عد... هم میدیدم که دست به دست می‌شد و اینا دقیقاً نفهمیدم چیه می‌تونی یه توضیح بدی برمون؟ آره ببین ارائه اینترنت در همین جا در ایران در همین جا چکل که ما هستیم بر دو مبنام ممکن صورت بگیره یکی حجمی یکی نامحدود درسته. یا بر اساس اقتصاد. این جایی که ما هستیم در پراگ در چک پابلیک ارائه اینترنت خونگی بر اساس اتصاله یعنی شما میرید و بر اساس سرعت یعنی شما میرید از شرکتی که اینترنت تامین میکنه سرعت رو تو انتخاب قرارداد اینترنت میبندید سرعت انتخاب میکنید و تا هر جایی ممکنه در ماه 100 گیگابایت 200 گیگابایت 2 گیگابایت استفاده کنی و یک بله. پول میدی با یک سرعت مشخص درسته ولی مثلا اگه گات ما برای موبایلمون حجمی اینترنت در داره. نظر میگیریم 3 گیگابایت 10 گیگابایت یک گیگابایت اینترنت درخواست می کنین برای موبایلمون و وقتی که اون به پایان برسه اینترنتمون در اون دوره به پایان میرسه باید تمدیدش کنیم در ایران شکلی که خیلی رایج برای اینترنت خانگی این هست که به صورت حجمی اینترنت میدن یعنی شما همین شکلی که روی موبایل ما میگیریم مثل چیزی که الان ما اینجا روی موبایل میگیریم شما میری یک گیگابایت یا ده گیگابایت یا سد گیگابایت اینترنت می و در یک دوره اون رو مصرف می و اگر حالا قبل از پایان دورت اون اینترنت تموم بشه باید بیشتر بگیری هفت... یکی دو هفته پیش وزیر ارتباطات آقای واعزی که ظاهرا در دولت جدیدم وزیر ارتباطات نیست بله. اعلام کرد که زمین که تعرفه های اینترنت قرار تغییر کنه قرار شکل در واقع ارائه اینترنت هم از حجمی تبدیل بشه به اتصال یا سرعت خلسته. منطقه ها این هفته یکی چند نفر از مقام های دولتی وزارت ارتباطات اعلام کردن حالا تهی است که تازه شروع شده دیگه اعلام کردن که در همین ابتدا این طرح با استقبال در واقع کاربران خانگی روبرو نشده و اونا حاضر نشدن که به خاطر حجم نامحدود. پولی رو پرداخت کنند ترجیح میدن که بر اساس مصرفی که دارن پول پرداخت کنند ولی آخه انجام نشده که ببینن آیا استقبال خب شده خب بعضی از شرکت ها هستند که سرویس های حجمی همین الان هم میدن و مثلا من نمونهش توی شرکت هایی که فعالا توی ایران تعرفه های فرس شاتل رو, رو بررسی کردم که جالبه مثلا شما اینترنت نامحدود میتونین ازش بگیرین. و سرعتتون هرچه بیشتر باشه باید پول بیشتری بدید مثلا با سرعت 6 مگابایت که تقریبا بیشترین سرعت اینترنت دریافت در این گزینه ای که میگم در شاتل شما ماهانه چهل هزار تومان باید بدین و حجمی که داره که تقریبا بهش میگن حجم نامحدود 350 گیگابایت که خب 350 گیگابایت خیلی زیاده خیلیه. میشه بهش گفت نامحدود, نامحدود. برای یک ماه دیگه برای یک ماه خب برای یک ماه خوبه 350 یک ماه تلزار تو من 350 بنظر به صرفه به ولی خب شاید شاید شاید بررسی همین سرویس باعث شده دیگه, دیگه سرویس دیگه هم عدد راقمی آره من پارسان هم نگاه کردم که تقریبا همین راقم هاست منطقه پارسان یک سرویس دیگه هم میده مثلا شما میتونید غیر از اینترنتی که میخرید یک بسته شبکه های اجتماعی بخرید که چیه این بسته؟ اون بسته شبکه های اجتماعی که مثلا 20 گیگابایت حجمشه و اونم حجم مناسبیه یعنی من براساس اساس مصرف خودم که آدم پرمصرفی هستم میگم حجم مناسبیه فقط برای ف... فقط برای مثلا اینستاگرام تلگرام ایناست و شما هر چقدر که در اینستاگرام عکس بفرستین عکس ببینید در تلگرام مطلب به اشتراک بگذارین تا سقف این 20 گیگابایت پر بشه از حجم اینترنت دیگتون کم نمیشه دورد. این سیستم رو مثلا من در ترکیه هم دیده بودم که شما مثلا فرض کنین یک گیگابایت اینترنت می خریدین ولی از اون شرکت اه اه با پرداخت یک پول خیلی کمی یک مصرف نامحدود فیسبوک می گرفتین بچه شما هر چقدر که در فیسبوک می رفتین می از اون یک گیگابایت اینترنتتون کم نمی آره این سیستم را خب بعضی از شرکت ها مثل پارسان که گفتم دارن ولی خب آره یکم مبهم هست که طرح هنوز آزمایش نشده اینها چجوری میگن که کاربران ازش استقبال نکردن و الان به شرایط چطوری اینو لغو کردن کلا رو گفتن خیلن. که بررسی میکنن دوباره که بتونن شرایط بهتری رو به کاربران ارائه کنن که کاربران بتونن استفاده کنن به نظر روش برای مصرف خانگی حالا در خارج از ایران خیلی باب هست که اموا اقسام سایت های پخش مثلا مستقیم موسیقی، پخش مستقیم فیلم اینها مثل نتفلیکس اینها رو خب در خونه ها دارن میبینن و خیلی ها دیگه مثلا به خاطر این سرویس ها اصلا چیز نمیخوام بنابراین این ده. حجم نامحدود که کم نمیشه ازش خب خیلی چیز به صرفه ای هست یک کم هم شاید بتونیم مرور کنیم روی تعرفه های جدیدی که اعلام کردند. ولی باز ظاهرا همون تعریف ها هم فعلا معلق تا آخر ماه آره بگو از قیمت ها و تعریف ها برمون آره مثلا بر اساس تعریف های جدیدی که اعلام کردن اگر که با سرعت دو تا 6 مگابایت در ثانیه شما ده, ده گیگابایت اینترنت بگیریم، یه چیز حدود 35 هزار تومن میشه ده مم. گیگابایت اینترنت برای مصرف بینورنی جالب بینم تفکیک کردن و آه. 20 گیگابایت همزمان برای مصرف داخلی به این که شما جبیدارد. وقتی سایت های داخلی رو مرور می‌کنید، از اون حجمی که برای دیدن مثلا سایت های خارج از کشور دارین کم, کم نمیشه, نمیشه. و, بلکس. و بلکس که ترکیب خود خوبیه یعنی شما لازم نیست است یه خور پیچیدش کرد حالا اینجا برینطوری این نمیدونم فیسبوک و اینا این راهیه برای این چیزی جدا. که گفتن اینترنت ملی و داخلی آه یعنی آه یه حجم بیشتری برن. به شما میدن با یک پول کمتری برای گشته گذار توی یه سایت های داخل داخلی؟ ایران آره. و با یک پول بیشتری شما همون حجب رو دارید برای گشته گذار خیلی وقت, وقت نکنه یه خیلی برین توی سایت های خارجی و اینا دیگه دلیلشین بسته ای, ای, که... آره بست ای که اعلام کردن بین 3 گیگابایت تا 70 گیگابایت ممکنه که در واقع حجم اینترنتش فرق بکنه ولی گفتن که خود شرکت ها برای ایجاد رقابت میتونن بیشترش کنن مثلا فرض کام پارسانلاین میتونه به جای 3 گیگابایت با 5 گیگابایتی با همین قیمت بده بسیار خیلی ممنونم ازت اگر حالا باز خبرهای دیگه باشه هفته بعد ازت می‌پرسین راجع بهش ممنونم مهدی احمدی رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه‌ی مهدی احمدی احمد. Away from the crowds I thought heaven can't help me now Nothing lasts forever But this is gonna take me down He's so tall and handsome as hell He's so bad but he does it so well I can see the end as it begins My one condition is No one has to know what we do His hands are in my hair His clothes are in my room And his voice is a familiar sound Nothing lasts forever But this is getting good now He's so tall and handsome as hell He's so bad but he does it so well And when we've had our very last kiss My last request is کاره in the sunset wildest dreams russian dream as taylor swift شالش گویندگی این هفته رو که مربوط به معرفی این هنرمند هست رو با هم بشنویم با صدای همکارای افتخاری این هفته شهریار، پریا، مرزگه، کیانوش، المیرا و الی تیلر آلیسون سویف، و خواننده آمریکایی یکی از پرترفتارترین و موفقترین هنرمنده حال حاضر دنیا به حساب میاد. تیلر سویف، بیشتر برای نوشتن ترانه های روایی که غالباً حول محور زندگی و تجربه های شخصی شکل گرفتن شهرت داده. خاننده هایی که موفق شد در نوجوانی و در سن 14 سالگی اولین قرارداد رسمیش با یک کمپانی موسیقی رو امضا کنه و اولین آلبومش رو در سال 2006 منتشر کنه از اون زمان تا امروز 5 آلبوم از تیلر منتشر شدند این آلبوم ها به شکل باور نکردنی پر فروش شدند و تا امروز 10 جایزه گرمی پنج رکورد گینس یک جایزه امی و 21 جایزه مجله موسیقی بیلبورد برای این هنرمند به ارمغان آوردند تیلیر که در سال 1989 در پنسیلوانیا به دنیا آمد برای اولین بار در سن نه سالگی به هنر م... موسیقی گرایش پیدا کرد و شروع به اجرای تاعترای موزیکال کرد این علاقه در تیلر جوان به جایی رسید که برای شرکت در کلاس های خانندگی به صورت منظم و هفتگی به نیویورک سفر می کرد. به تدریج و به خاطر ای که به شنایات آین داشت به سبک موسیقی کانتری گرایش پیدا کرد و تمام آخر هفته رو صرف اجرا در فستیوال ها و رویداد های موسیقی می کرد. Got bad blood. Did you have to do this? I was thinking that you could be trusted Did you have to ruin what was shining? Now it's all rust think we'd be fine still got scars on my back from your knife so don't think it's in the past these kind of wounds they last and they last now did you think it all through all these things will catch up to you and time can heal but this won't so if you're coming my way اولین تلاش جدی تیلر سوئیفت در مسیر حرفه‌ای موسیقی وقتی 11 ساله بود اتفاق افتاد. مادر تیلر بازخانی یکی از آهنگ‌های معروف با صدای تیلر رو به یک کمپانی موسیقی برد، با اینکه اونها به صدا و استعداد فرزندش توجه کنند و راهی برای این هنرمند جوان باز بشه. اما اونها این قطعه و صدا و توانایی تیلر رو نپذیرفتند. وقتی تیلر 12 ساله بود، از یکی از دوستاش سه آکورد گیتار یاد گرفت. آکورد‌هایی که با... با استفاده از اونها اولین ترانه و موزیکش به اسم لاکییو رو ساخت. به خاطر استعداد و علاقش به نوشتن ترانه تونست نظر یک ترانه سرا به اسم لیز روز رو به خودش جلب کنه تا در جلسه های هفتگی که بعد از مدرسه برگزار می بهش نوشتن ترانه رو به شکل جدی یاد بده. تمام این ها نتیجه داد و وقتی تیلر فقط 14 سال داشت امکان امضای قرارداد با کمپانی موسیقی سونی ای تی وی براش فراهم شد این آغاز کار تیلر سویفت خواننده و موسیقیانیه که بعدها علاوه بر برنده شدن معتبرترین جایزه های موسیقی دنیا و تبدیل شدن به یکی از پرفروش ترین هنرمندای تاریخ موسیقی پاپ دنیا دو بار و در سالهای 2010 و 2015 به انتخاب مجله تایمز به عنوان یکی از 100 شخصیت سیر در دنیا معرفی شد عرفی تیلر سوئیفت رو با هم شنیدیم با صدای همکارهای منتخب این هفته شما هم اگر علاقه دارید توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید کافیه یک ایمیل با سابجکت یا عنوان چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه استگاه5.radiofarda.com بفرستید تا متن مربوط به برنامه هفته آینده براتون ارسال بشه داریم به لحظه های انتهایی برنامه می رسیم. من هم تا پنجشنبه هفته آینده که با ایسکاپ پنجشنبه برگردیم پیشتون، ازتون خداحافظی میکنم آخر هفته خوب و خوشی داشته باشید. خموم شدیم و فقط برامون چند کلمه در دل, دل آخر کار مونده تو این چند هفته اخیر دقت کردید چقدر خبری بعد از دور برامون میشنویم که کودکی کشته شد دختر بچهی مصله شد یا زنی یا مردی یکی مثل من و شما چقدر زود و توسط یک انسان دیگه مثل خودش از بین رفت چقدر بد این خبرها و چقدر خوبه که گای وقتها ما آدم بشینیم جلوی آینه و یکم به خودمون به دوروبرمون به دیگرانی که به ما وابسته یا دلبستن فکر کنیم و یادمون بیاد که چقدر راحت میتونیم این حیبت انسانی که جلومون توی آینه نشسته و زل زده بهمون رو فراموش کنیم و تبدیل بشیم به یه موجود ای که هیچ ربطی به انسانیت نداره باید بشینیم فکر کنیم که این راهی که ما اومدیم کجاش اشتباه بوده کجا فراموش کردیم اما خودمون قبلش از یاد رفته بودیم کجا تصور کردیم که پیدا شدیم اما پیش از اون گم شده بودیم و کجا سراب دیدیم و فکر کردیم اون چه روبرومون نقش بسته واقعیته این همه درد و قتل و رنج همه اینها گردن یه قاتل و محدود به یه مقتول نیست ما هم قاتل و مقتولیم ما هم میکشیم و کشته میشیم وقتی که جامعمون قد عادت کرده به شنیدن و واگويه کردن این همه خبر بد این همه تلخی این همه خسران این همه تباهی باید بجنبیم حتما دیر شده اگه وقتمون تموم نشده باشه حتما خیلی چیزا از دست دادیم اگه اصلا چیزی مونده باشه چیزی که مسلمه اینه که آدم من و تو طاقت این همه اتفاقات خونبار زشت و پلشت رو نداره پس بیایید بجنبیم تا وقتی که وقت هست تا وقتی که دیرتر نشده تا وقتی که نفسی هست و هنوز تو قفس خودساخته ی انسانیمون گیر نیفتادیم تو این وانفسای فقدان نفس و در فراوانی اجاباور این همه قفص باید راهی جست تا به منتهای عبست نرسیدیم نفستون برقرار و ترسنا ترسناک روح انسان از زندگیتون دور در دو روز دنیا برام قفس تر از قفسه به نفس برسون هوام دوبار پسه تبا ما داشته باش میگن تو منی و دم مسیحایی نفستر از نفسه برای زندگی همیشه مینگ جای زندگی الهی من بمیرم برای زندگی یادم رفته چی دردمه چی دوامه برام مهمم نیست کی نیسته شو کی با هامه همیشه میلنگه لنگه یه جای زندگی یه مرگ تازه می خوام. جای زندگی نظر که کشته این زهر گازنده بشم نیخام تو این بازی یه بار برانده بشم همیشه میلنگه جای زندگی الهی من به برای زندگی ید جای زندگی بمیرم برای زندگی